اللهم صلی محمد و آل محمد عوضو الله من الشیطان علیه این بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم ارزردب احترام و محضر آقاین محترم تسلیت نیام فاطمیه خب ما دو جلسه قبل رجب یه سلسله بحثی رو با عنوان این آخر و زمان شروع کردیم و در واقع بخشی از همون رواهت عهده اون تا این 3-4-5 هر چقدر بشه مجزا میبینیمش اسمشون برز کردیم که اتفاعت دنیا داریم میفته انقدر خواسته که در انقدر تو این چند سال قرار ربندهای جهانی تغییر بکنه که باید به صورت بیجه بررسی بشه ما جلسات قبل راجع به مواسع اقتصادی و در واقع زد و خوردی که بین رژیم سهینیسی و جبه مقاومت و کشورمشه گرفت صحبت کردیم امروز خود روی بحث تاریخی ترش وارد میشه و عرض کردم من اینا از عباد مختلف بررسی خواهم کرد سیاسی، سی اقتصادی، فرهنگی، آخر و زمانی روایی شاید فرصت کردیم تلصد آخرش بشه اما و رویکردمون هم کاملا واقع بینانه اونجایی علال ارز و روی زمینه خب یه بحث بسیار مهم بین سه یونیستا خوب دقت کنید این نکات نکات مهمیه یه موجب موجبه برداشت غلط نشه. خدمتون آرز بشم بحث بازگشت دوباره یعجوج و معجوجه در باره یعجوج و من خودم حرف زدم شما حتما مطالعه کردید نقل و قولهای مختلف وجود داره خیلی دنبال گمان در مورد ها هستن ها کی بودن در قرآن ما سراحتا اشاره داریم به یعجوج و معجوج در ماجرای زلغرنین اشاره شده آیه دیگری باز داریم. اشاره داریم در با بخش قرآنیش فعلاً اصلا کار ندارم شدارم دشمن بررسی میکنم تو اونها جستجو کنم اونها جوج و ماجوج میگن یعجوج رو به این شک قرآن اینطوری مطرح کرده چرا این کار کرده این یکی از اجازه های قرآنه و در واقع از نظر شناسی شاهکار رو حالا به وقتش برسیم عرض میکنم توی سخنرانی حقیقت زلغرنی خود راجبه یه عجوز معجوز صحبت کردم اما او اونا فکر کنم رسنا 12 سال پیش بوده دیگه من هران چی که پیش دفتم معیدات بیشتری پیدا کردم برای اون فرض. اینو بگم تو این سال چیزی که نقضش کنه پیدا نکنم از قضا تعدیه به دیگه گوگ و ماگوگ یا چون در زبانهای سامی نعراب یه جه میشه مثل چین و ماچین جوج و معجوج یا معجوج یا ماجوج به اقوام بدوی و یابانگرد اشاره داره که اینا حمله میکردن و همه اذیت میکردن نوعی بربریت داشته. در مورد اینا چه زمانی بودن کجاها بودن هر زیاد اختلاف نظرم تا دلتون بخواد هست محضر شما آرز بشم که همچطور روی نقشه شما می‌بینید این منطقه از جنوب در واقع سیبری و استپ‌هایی که جا وجود داشت از مجارستان بگیرید تا برسید به اون طرف اقیانوس کبیر این منطقه منطقه خیلی خاص و عجیبیه اولاً همونطور که می‌بینید کوه نداره 5000 کیلومتر 6000 کیلومتر صاف صاف زمستان های بسیار سخت زیر قطب دیگه آب فراوان منطقه وحشی و سخت که و مباد غذایی اونطور که در بین نهرین به خاطر آب و هوای خوبش پیدا می‌شد اونجا به این شکل نبود اینها اقوام بیابانگردی بودند که تمدن نداشتن شهر نشینی نداشتن کوچ نشین بودن تو این 5000 هزار کیلومتر حرکت میکردن به جنوب خودشون حمله میکردن و دیوار چین برای مقابله با اینا ساخته شده دیوار گرگان برای اینا ساخته شده صد دربند در داغستان این طرف قفقاز دیوار گرگان به امان دردسنیک یا مار قرمز ساخته شد برای مقابله با اینها تو منطقه هستان گلستان خودمون و تورک همون سهرا جمعیتشون برخلاف چین و اینها زیاد نیست خیلی فکر میکنن مثلا اونجا جمعیت زیاد داشتن یورش یورشون نه اینا چون کشاورزی که نداشتن درسته سابیه کاری هم نداشتن یه دامداری جزئی هم داشتن خیلی هم با دامدارهای خیلی آنچنانی نبودن اینا نونشون تو قارت بود شمالشون که قطبه خبری نبود پس مجبور بودن دقیقا به جنوب خوش اون طرفش میگفت آرام بود یا به چینیا حمله میکردن یا به اروپای شرقی حمله میکردن به ایران ما هم از دو طرف حمله میکردن حالا من بحثم صرفاً ایران نیست اما اینجا یه بخشی رو ایران هم صحبت خواهم کرد یکی از شرق دریای مازندران حمله میکردن اینجا عوارض براشون کمتر بود خیلی راحت میومدن یک بخشم از شمال قفقاز اگر انایت داشته باشید این منطقه این همین الانو ببینید سفیده این کوههای بلند قفقازه یک موانع طبیعی اینجا وجود داشته به این سادگی نمیتونستان بیان فقط از نزدیک ساحل میتونستن بیان که اینجا اومدن دربند رو ساختن دربند اسمش روشه خب که الان دیگه بالاتر از جمهوری آزربایجانه تو داغستانه در روسیه است خدمت شما عارض بشم که الان هم از سه هزار سال همین کاری میکردن سه سال پیش، 2500 سال پیش این کاری میکردن تا زمان دوره اسلامی، یعنی در تاریخ مبرخین اسلامی هم مکرر اسما اینا رو بردن از جنایتاشون گفتن، بسیار سنگدل از نظر مذهبی اینا شمنیست بودن، چند خدایی بودن اصلا اعتقاد این دینی که شما دارید ما داریم من این منطقه به اینو نهر نیست اینو تعطیل دیگه بنده نبونو خدا اصلا چی به شما بگم هم اروپایی ما با اروپایی ها سالها می جنگیدیم. جنگ داشتیم از قدیم جنگ داشتیم جنگ اون ایدئولوژیکه خیلی جدیه با قربی ها از 2500 سال پیش حمله اسکندر بگیرید تا الان ما با اینو جنگ داشتیم جالب ها وسط جنگ اون با فول میدادن میگفتن این این قلعهی اونجا زدید و تقویت کنید یعنی قبول داشتن که ما بر اونا هم خوبه همه به این ندیجه رسیده بودن حالا این فرضی ی بازیاش یجوج ماجوج در آخر و زمان چیه این درست بوده از نظر من در کتاب الهی درست بیان شده بوده اما این کلام مساق و ماجوج کیه این خیلی مهمه صحیحو نیستن الان دارن میگن که ببینید اینا همین روسان دارن با ایرانی‌ها دست به یکی میکنن. میخوام پدر ما در بیارم یا برداشتی دارن یا اینو با نسبت میدن به اقوام مختلف با اونم فعلا کار ندارم یه فقط اینو گوش کنیم این پنج هزار 6000 کیلومتر هزار کیلومت از منچوری چین تا شرق اروپا قبلا اقوام دیگه هم اینجا بودن اونها هم زودتر سه هزار سال قبل آمدن به جنوب مثل سکاها خب اونها آمدن تو ایران وارد شدن وارد بخششون وارد هند شدن. وقتشون به اروپا رفتن زبانین الان تایید میشه شما شمال هند رو نگاه بکنید زبانشون آریاییه اما جنوبش دراویدیه زبان اصلی هندیا چهارهزار سال پیش همین دراویدی بوده آرام آرام اینا پس پست نژادنم نجادن هم سیاه پوستن یعنی پوستشون تیره تره شمال هند سفید تره چون اینا دقیقا از هم بالا شما هر کسی بود دی... کسی دیگه هم بود این کارو میکرد کوچ میکردن بیمدن اونجا رو اگه میتونستن صاحب داشت که میجنگیدن نداشتم که دیگه به قولی می میشدن خب واژه این بربریت هم اینا بگم جالبه تو آفریقا گفتن بربر به جرمنها رومیها میگفتن بربر بربر یعنی کسی که از مدنیت به دوره تمدن نداره یعنی آفریقا کجا؟ چه میدونم روسیه کجا؟ خیلی با هم فاصله دارن برای همین همیشه اینو خیلی نکته معامین و جافته کسایی که مدنیت داشتن شهر نشینی داشتن نسبت به افرادی که بیرون خودشون بودن این واژه رو استفاده میکردن من مادل امروزی داره نمیخوام بگم شهر میشه خب یعنی تو عقب مونده تو از فرهنگ به تو یعنی همچین چیزایی که استفاده میکردن یعنی ما مدنیت داریم حالا خود همین که مثلا ارواح امش مدنیت الان داره هزار سال پیش از همینا بوده زودتر یک جانشین شده. 200 سال پیش از همینا بوده. ژنتیکی فامیلاشن خودش از همون ژنه بعضن به همان زبان صحبت میکنه. موارد دارم الان عرض میکنم. اما خب مثل عرب عرب یعنی بیابانگر خب یک سر از اعراب یک جانشین شدن. درسته؟ باز به کوچنشین های خودشون به اشاره خوشم گفتن چی؟ جا عرابیون این فوشه <تصفيق> این بیابونگرد اومد یعنی فرهنگش هم شما داری چگاه میکنی؟ اشاره میکنی و گوشت میکنی و میگی؟ یه چه کسیه؟ مثلا جاره کتاب من سلاتین جلده صفحه صفحه 479-481 چاپ سنگی استانبول گوش کنید؟ سلطان سلیم پادشاه عثمانی سلطان سلیم پادشاه عثمانی به شاه میگفته تو ترک و تورانی هستی اینو با مان فوش به شاه اسمایل داشته میگفت اینجا میفهمیم مراد از کلمه ترک اینجا به معنی چی بوده همین عربی که اینور استفاده کردم همان سکاهایی که زودتر اومدن اینجا یک جانشین شدن به سکاهای دیگه خودشون میگفتن عقب مونده متوجه شدید؟ هرکی زودتر اومده در مورد اینکه ترک از چه کلمه گرفته شده چون این منطقه که به شما نشون دادم این 5000 کیلومتر عموما اینها از منطقه آلتای نزج و ریشه اونجاست از شمال غربی چین مرز بین روسیه قزاقستان و مغولستان و شمال مغولستان تا سیبری مطالعات ژنتیکی هم که انجام شده مؤید این مطلبه خوب و جالب بخشی از ژن مشترک اینها در بومی های آمریکا هم پیدا شده. که مشخص اینا از تنگه برینگ عبور کردن و از اون طرف کره زمین خدمت شما از کنم آمریکا و روسیه با هم فاصله کمی دارن. حالا جالب دو تا جزیره اونجا داریم. این جزیره چهار کیلومتر با هم فاصله دارن. تو یکیشون دوشنبه است تو یکیشون سه‌شنبه است. 24 ساعت اختلاف زمانی 23 ساعت و خورده اختلاف زمانی با هم دیگه دارن. یعنی یه روز دیگه است اونجا اگه فقط 4 کیلومتر دیگه رو می‌دید مثلا میگن یعنی تونستن از اونجا با قایق یا زمانی که هوا سرد می‌شده یخ زده رد شدن و بعد که هوا گرم شده موندن اون طرف و دیگه مثلا یا اونجا مستقر شدن و زیاده نط خب در موردی که این لغزیش چه توضیح میدم اما یکی از وجوه تصمیه تور یعنی از همین عدم یک و کوچ گرفته میشه برخی میگن برخی میگن حتی این کلمه واژه هندوروپایی از همین توریسم ما میگیم الان کسی همش میچرخه میره این طرف اون طرف همین ریشه است کافی که آخرش قرار گرفته کاف نسبت مثلا میگفتن پارسیک یعنی ایرانی توریک یعنی اهل تور کسایی که یک جانشین نیستن این الزا این فارغ از نژاده نه دقت بکنید که الان دارم میگم اینجا میگفته عرب یعنی بیابان نشین معنیش این بوده چون این دین در بین بیابان نشین کرد بین رو گفتن این رو پیانبر که ما پیانبر عرب عدنانی عرب قهتانی نیستن یعنی مستعربن زبانشان عربی شده چند هزار سال پیش اجدادشان حضرت اسماعیل حضرت اسمایل پدرش که حضرت ابراهیمه مال و منطقه نیست همه می دونن. مادرش هم که حاجر مصریه بازم مال و منطقه نیست همه می دونن. و پدر مادریشون ایشون تو اون منطقه اون چاه پیدا شد و قبایلی که داشتن اونجا رد می‌شدن آب دیدن اومدن اونجا ایستاد شد شهر مکه خب ما مستعربیم یه وقت اینا رو ما همه نژادها همه اقوام برای ما محترمان ان اکرمکم الله الله کن اصلا همه ما الان اینجا نشستیم اما ترک‌ها که پیدا نمی‌کنید این خب دو همه ما که اینجا نشستیم خدمت شما اسکن مشکیه اهل بیت رو تنمون کردیم یعنی احترام قائلیم برای چی دینمون اسلام دینی که از اون سرزمین شبه جزیره عربستان آمده و احترام قائلیم قطعا خدمت شما عرض بکنم حسین برای ما اهمیتی نداره فرق نمیکنه اما خود خب بر... ماجرا تاریخی خوب بود متوجه شد وگرنه همین مسیری که الان دارن دروغایی که سر هم دیگه می‌کنن به خورد ملت خواهن داد و دو متاسفانه ادامه‌ام داره دیگه سرزمین ایرها با الف مکان گیل گیلان ایران بخشی از اینها کوچ کردن به اروپا ایرلند سرزمین ایران حالا تور با و مکان توران ایران توران ایرج تورج این همینه این همینه اقوامی که از شمال شهر حمله میکردن پدر ایرانیان ناراحت بود ازیت میکردن چون او جای نداشت بهش حمله کنی کوچ نشین جمع میکرد چادر میبست پشت عصب شد تو رو خدافز خب، حالا برای بگرد پیداش کن اما تو شهر داشتی امید من از نظر فرهنگی و زبانی هم کلی بحث و محث و این چیزا هست که به وقتش حالا محظرتون عرض میکنم الان بریم جلوتر خب بله اینا چند خدای بودن یک دینیست تنگیری باوری پدر آسمانوشم بود خدای بزرگ آسمان همین الانم هم در زبان ترکی به خدا میگن تاره خانری تنگری تاره یعنی خدا از همون اومده مردم آذربایجان همین اول بگم مردم آذربایجان ایران و حتی ترکیه نژادشان آلتایی نیست ترکی نیست زبانشان ترکی شده هم هست اصلا اختلاط نژادی نابود چرا اما خیلی کم الان مطالعات جنتیکیش هم میگم که دیگه اینا مولا درزش نمیره دیگه علم ژنتیک یه بحثای مثلا علوم انسانی نیستش که تفسیر پذیر باشه هرچند اونجا هم شیطنت کردن اینو خیلی پدر سوختن این سرینیست حالا برچون میکردن اینا تو منطقه سپراسی ها زندگی میکردن خدای بزرگ آفریننده شون الگان بود یه ارلیک داشتن که خدای مرگ بود و اون یه تیکه خدمت شما هست کنم گلد تو دهنش قایم کرده بود که نگه رفت زیر دریاها قایم شد و ما داره شکی خواست باید هم بیرم مطالعه کنه سرتون درد میخ یارو بیا آتیش خاموش کن فهمیده بودی یه چیز تو دانش قایم کرده دلگان اینا تو مات آتشو خاموش کن گلد دانش پرید بیرون ها میگن این ها و جاهای نمور و سرد و این آفرید یعنی ها کار ارلیکه یکی دیگه عمای عزتبانی باروری باکرگی آی اتا آی یعنی ماه هم یعنی پدر ماه پدر که یا خدای ماه میگفتن طبقه ششم آسمون زدون کن جون آنا جون خورشید، آنا مادر که اینم عزت‌بانوئے زندگی و باروریه، کویاش معادل خورشید بوده، خدای خورشید بوده. یرتانره، یر یعنی زمین، تانری هم, یعنی هم که یعنی خدای زمینم که هم مشغول کارهای ما بود و بندگانش میرسید اینا شمنیست بودن، یک سری روحانیانی در بین خودشون بود. نوعی از روح پرستی داشتن اشیاء رو صاحب روح می دونستن. بعد هنوزم که هنوزه بخشای این ها سیبری موندن از که چون تمدن خیلی خوب در محل رفت آمده و تعامل و تزار به عقاید نمودن هنوز موندن مثل یاکوت ها هنوزم روحانیون شمنیست دارن و همین جنگیری و جادوگری و کارهای عجیب غریب و حبیر. ما داریم داری چند سال پیش حرف می زنیم. خب همه جا بوده خیلی سردسیره جمعیت فراری بودن مغولستان تقریبا جم... مساحتش با ایران یکیه جمعیتش چقدر؟ سه میلیون مغل که زدن بابای کل کره زمین رو درابردن جمعیتشون هم چقدر؟ سه میلیون قزاقستان یک و برابر ایرانه جمعیتش یک پنجم ایرانه <تصفيق> یعنی جمعیت ایران چهار و نیم برابره بخوام دقیقه ترداشو دقیق دقیق. و خب، جمعیت خیلی کم چون اساس منطقه منطقه زندگی نیست سخت زمینه او اون های ژنتیکی که انجام شده هاپلوگروپ مربوط به اقوام ترک باستانی هاپلوگروپ کیو تبار مشترک بین هونها بومی های آمریکا و گوک ترک ها بیشترین شوی این هم این هاپلو تو آسیا مرد به کشور ترکمنستانه که 50 درصد داره. از نظر شاخصهای چهرهی هم ترکمنستان مشخصه می‌خوره. یعنیش اقوام شرقی رو شما در چهره‌شون شون میبینیم. اما در آزربایجان ما همچین چیزی به وضوع کور که نیستیم داریم می‌بینیم. از غذا بارها گفتم آزریا به چشب روی درشت و معروف هم. خب، آندراس روناتاس پجویشگر مجارستانی چرا اینا رو انتخاب کردم؟ چون اینا معتقدم مجارستانی از ما واژه ترک رو یک واژه خوتنی سکایی تو ترکا به معنی کوچ نشین به معنی کلاه نوعی از کلاه میگه بعد ترک به معنی ترک شده بعضی میگن گفتن آقا اونا که بالای اون رای این که دیگه ما نمیشناسیمشون خب فکر کن مثلا باین بر میخواسته بگه برید علمو بیاموزید حتی اگر در چین در مریخ باشد گفته فهمید کجا در چین خب اینا شماله چین اتازه خب یعنی یه جایی که اصلا نمیدونم کجاست تو نقشه های هم کشیده اصلا چه میگن آقا این سد زلقرنین یعوج و ماجوجه هیچ چی نه نوشتن پشتش خب یعنی علاقمون کس کار نداشت اونجا بره کسی هم برای کشورگشایی اونجا نمیرافت اما که میذیشه به جزیره عربستان مثلا حخاوند نشان رفتن مصر و لیبی رو گرفتن دست به عربستان نزدن اون دیوونه مگه است مهمه تو این ریگزارها برای چی بدن گفت چی گیرمون میاد جنوبش یمنو گرفتن اون بغلاش جایی که چهار چیز داشته به درد می‌خورد استراتژیک بوده راهبرتی بوده کشاورزی داشته با اونجا کاری نداشتن مدینه که در اونجا به واسطه رسید یه روستای بزرگ بود واقعا یثرب یه اسره بیه روستای بزرگ بود بعد شد مدینت نبی شهر پیامبر و این اسمش بوده مکه شهر بزرگی اونجا بودم فقط با خود کعبه. عبه اونم حضرت اسماعیل رفته اونجا و اینم اونجا کسی کلاش میفتد اونجا نمیرفته خود الان هم من زمان که حج بودم به این یکی از این های عربستانی مفتد شما به غیر از نفس سادراتی دیگه اونجا چیه؟ بعد صحبتا خورما اینجا چیمیست که باست خورما هم اینا مثلا اول نیستن عراق و یه زمان ایران خودمون بیزو بزرگترین سازندگان خرمای جهان بودیم. بعد وقتی بهش گفتم هیچ چی نمی‌تونی بگی منو خدا. چیزی نداره خودتون چیز چیزی باور نمیاورد. تعبیر یا خدا بر یه چیزی میتونه؟ حالا بهشون نفت داده عوض همه هر چیزی دیگه. توتم اینا گرگ بود. توتم چیه؟ توتم اون یک ارتباط روحی فرهنگی شما برقراری می‌کنید با اشیاء، با حیوانات خصوصا توتم ما معمولاً تو سرپس صرف گیاه ها نبوده. تو اینجا معمولا حیواناته اون حیوونی که ازش میترسی آرام آرام رنگ و بوی خدایی بهش میدی چون ازش دائم شکست میخوری بهش تقدس میدی مثلا توتم روسا خرس بوده طبیعی توتم اینها چی بوده؟ گرگ بوده آرام آرام به گرگ تقدس دادن همه چیزشون هم اینا آتش بوده هوای سرد شما چی نجاتت میده؟ آتش حیوان مهمشون حسب. یعنی اصب هم شما مینید معروف هستید بیه تازن دشت صاف از این بر با اون همین از این ها خیلی باجه ها گرفتن مثلا پریدن به تلکی چی میشه؟ یعنی اسبیدن. همونه یعنی شبیه میشه. آتشی نه بنداز آتلماخ، آتلماخ، آت خدمت شما ارز بکنم که هر چیزی که به اصف رب داشته باشه مهم بود چون حیوان مهم بشه کمکشون میکنه طبیعی. الان ما یه باز گوشیمون نباشه بیچاره میشین ماشین نداشت بشین بیچاره بشین مرکبش بوده نید تو جنگ ها نجاتش بوده و آتش ادوم یعنی اتوم آتش یعنی هیزم ات یعنی آتش کجا میشستن؟ دور آتش جا جاییش نشستن نبوده که میشه چی؟ اطراخ اطماخ بعدن اگه حتی سازه ای هم درست شد اتاخ همش طول ات، طول آتشه بعد این رو درک بکنیم از نظر فرنگی خب اینا هی حمله میکردن یا کروش با اینا برخورد میکرد برای توسی جالب بیدارم بعد تا تو... عرض کردم زمان اسلامی دیگه آرام آرام با روی کار آمدن بنی عباس بنی عباس اومدن سیاست رو تو خودشون نگه داشتن وزارت رو دادن به ایرانی ها ایرانیا بروکراسی بلد بودن ببین مغلا حمله کردن رفتن هیچی ازشون نمونده نصف دنیا رو گرفتن هیچ اثری ازشون نیستن سه میلیون جمعیت روزی چند بار اسم مغولستان تو اخبار میشنمشون هیچ چرا؟ چون وقتی تو تمدن نداشته باشی کار نکرد چون اصلا امکان شکریه تمدن نبوده یارو فقط با سرماگرمای خودش حفظ میکرده حتی گوش ات گوشت اسب میخوردن برای اینکه ارزش عرضش غذایشت دست نده گوشت عصبو میداختن توی چرمینه های چرمی میبستن به فتراک اسب به این جلوی زین اسبی برامادگی هست خب با تناب میبستن این میخورد به روان پای اسب توی هر که این آب می‌انداخت له می‌شد همین الان در خدمت شما عرض کنم اقوام که آلتایی هستن بنن ها هنوز گوشت خام می‌خورن یعنی هنوز این فرهنگ ایشون ساروجا هنوزم شمنیست دارن یعنی اصلا این روحانیون عجیب غریبیون کارای عین فیلمای بایکینگا رو دیدید نشونده سریالای بایکینگ جادوگری اونجا عین همون چهتون مایا ها بر اینکه فقط وزا دستتون بیاد گوگ یعنی آسمانی گوگ برخی میگن حتی همین لفظ گرگ جوی و گوگ یه ریشه داره یعنی آسمان یعنی چیزی که به ربط داشته گوگ ترک یعنی این نسبت آسمانی. گوگ به مرور زمان به خاطری که سامی ها حرف گیو تلفزه میتونه سنبو کند شد جوج. جوج و ماجوج. این ها بودن نه حمله میکردن بابا ها بچه در <تصفيق> خب الان اگه شما برید مثلا در شمال شرق ایران نگاه بکنید ما شهر سایروپولیس داریم کورکت اسمشه کرکرشه اینه صد بار گفتم بازم میگم چون تعجب میکنم زبانشناس اومده اشتباه نوشتی کورش؟ ابریه کورش ابریه کوروس یونانیه یونانیا آخر همه اسم اوس میذارن مثل اروپای شرقی ایچ میذارن مثل روسا که اف میذارن درسته مثل ما ایرانی ها یای نسبت میدیم حسنی حسینی عرب اسم حسن حسین عربی آوردیم یه ای گذاشتیم فامیل باش درست کردیم درست شد این کوروس بوده یونانیا کورس طرفوز میکنن چون سی هم که خونده میشه هم سه دقت کنید یعنی کو وقت سی نوشتن مثل کار کار انگلیسی یا مثلا یه کلمه‌ی دیگه بگید با سی شروع بشه که سلبریتی مثلا سلبریت. خب این کورس شد چی سیروس اینم یکی دیگه از اسامی کوروش هم که برداری اون آخرش فارسیش در میده که این چی تلفظ میکردن؟ کور، یعنی پسر کور به معنی پسره به معنای کور خور خور خورشیده و به معنی کوه بزرگ این من که یادم میکره. این یونانی شده شده کوروس بعد ابری شده یهودی هم سه و می میدن شلام شلیمان اورشلیم، مشه شده کوروش، داریوش داریوس بوده این یونانیشه. اون اوسه یونانیش هم ورداری میشه دارا داریو همین الان داریو اسمه استفاده میشه تو اروپا دارن استفاده میکنن کورکت یعنی چی کور یعنی کوروش خونه کور رود کور محل تولد کوروش کوروش اصالتا اهل بخوایم امروزی بگیم انشان بوده انشان کجاست جنوب زاگرس مادرش ماندانا دختر اجیدهاک ماد بودن اینا اینا آزربایجانی بودن کودتا کرد علیه با بزرگ خودش اجیدهاک ها که عربا ندارن شد چی؟ زحاک خب علیه این قیام کرد با بزرگ خوش شکست داد دو تا شاخه رو به هم چسبون ماده و پارس ها دو قرن قرن به عربی یعنی شاخ و شاخه امت چون یه گروهی از مردم هن. شوت بالها نیم در ابری صاحب دو شاخه ماده و لفرشا فرشان پارس این ابریشگردی شه گفته دو شاخه رو به هم چسبون یک حکومت جهانی عجیب غریب درست کرد خب که عربیش میشه صاحب میشه زو مثل زل جلال صاحب جلال الف لام تعریف قرن همون شاخ شاخه یا ونون مسنص زل قرن نه من نمیگه دنبال زیر بغل مار میگردن به دید ششونه نمی کنم خب یه تو کتاب دانیال نبی است انجیل قبول نده انجیل رو که قبول دارید انجیل برنابار هم بخونید ببینید ماجرای دانیال و حضرت حضرت دانیال علیه سلم و رو ببینید خب این هم نکن. الان در منتها علیه شمال شرق ما کورکت داریم کور یعنی کروش <سؤال> کت یعنی چی؟ کده، دانش کده، جایگاه کند، کد، داشکند، تاشکند، سمرکند، بیر جند، بیرکند درسته؟ این لفظم برخلافی که خیلی بیم لفظ ترکی، ترکی نیست چون اصلا شهر اصلا الان الیک از چیزایی که بحث میشه حتی اینا زمانی که اومدن عثمانی رو گرفتن الان اینا داشتم توضیح میدم میگم براتون تو خلافت عباسی کار کردم یادن وقتی گرفتن شهر نداشتن شهری که روم بیزانس شرق ساخته بود صاحب شدن شمشی دست کی بود؟ دست این تو رو یاد میری اون زبانه تو رو بدا پدرتو شد. باید یاد بگیری <تصفيق> <تصفيق> برنی الهباس چیکار کردن؟ برای که بتونن بر اعراب بر رقبای خودشون تا اروپا پیروز بشن از توان رزمی قوی ترک ها استفاده کردن خیلی قوی بودن تو, رز... تو جنگندگی به جنگندگی و تاختن معروف بودن آوردن چگاه که دستگاه نظامی رو پس دادن دست ترک ها بروکراسی کاره اداری رو دادن دست برمکی ها ایرانی ها سیاست هم در این خود عربانه نگه داشتن این مسلس آرام آرام شمشیر بر بقیه چی شد؟ پیروز شد و اینها همه ترک ها همه و همه و همه سیاسی هنفی شدن یعنی بین چارف شاخه اهل سنت شافعی همبلی مالک حنفی همه چی شدن؟ حنفی شما از ترکیه بگی حنفیان هن تا ایغورهای چین همه هنافیان هن. این عمدی بود برای اینکه اینا مجزا با شافعی ها کردو شافعیان مذهب سیاسی اتخاذ شده بود نیمه خوب فضا دستمون بیاد وقتی قدرت دسته این بود عملا خلیفه هم به دست گرفتن که اون شعر معروف که براتون اسپار خوندم میگه خلیفته تو عربی شعر گفته میگه خلیفتون فی قفس میگه خلیفه ما تو قفسه بین الوصیف و البغای میگه بین الوصیف و بغای گیر کرده یقول ما قالا لهو میگه هر اون دوتا بگن قالا له که ما یقول البغای همون چه که چی توتی بگی همون چی توتی تکرار میکنه یعنی قدرت دسته بغای بغای هم که شما می‌دونید اسم توغای، بوغای، اینا هر کنون حیوانات هم هست هیوانات مقدس بودن توی توتیمیزم اینا هیوانات تقدس دارن روح خدایی دارن مخصوصاً هیواناتی مثل ببر مثل پلنگ مثل هیواناتی از این دست خب این زمان کروش میگذریم میام ایوهایی باید برسن به الان لازم شده چون موضوع ما الان زلغرنه نیست اینو حالا کتابی هم اله هم دوله ما شروع کردیم دیگه در اواخر قرن شیشم بعد از میلاد این قبایل ترک تونستن یک کنفدراسیون درست کنن ده ها قبیل 20-30 تا نمیدنم چقدر با هم یکی شده نشده تحت حکومت واحد رفتن و تونستن همون منطقی که بهتون نشون دادم در شمال ایران و تاجیکستان و چین تا اروپا رو بگیرن بعد دو امپراتوری شرقی غربی شدن چون تو مسیر مخصوصا این بخشی که شمار قفقاز بود چون مسیر اروپا بود بسیار اینا رو سروتمند قدرت که داشتن، اسلاحی داشتن، تاختن بلد بودن اومدن در جنوب شرقی اروپای مدر روسیه، جنوب اوکراین، کریمه و قذابستان اون طرف در دریه در خزر رو، در, در ما رو پوشش دادن به نام گفتن خزرها این لفت در, در خزر هم که داری استفادشون متاسفانه از مسئولین سیاسی ما تو دهه هشتاد پذیرفت بین ما سال 70 تا پنج مصوبه داشتیم که این دریا اسمش خزر نبوده باشه و مازندران ماده شود باشه حالا جالبه مازندران هم نمیگه لاقل در یک بگید که فارسیه ایرانیه این اسم روس‌ها دارن میگن کاسپین باخت کشورهایی که خودشون الان ترک زبانن میگن کاسپیان ما اینجا میگیم خزر معارکیم بگید وقتی تو مسئولین ما درک فرهنگی وجود نداره نمیفهمه اینا بعدن اینا بعدن سند تجزیه طلبی خواهد بود همون موقع که بو موسیو کردن ابو موسا، بو و ابو کردن باید به این فکر می‌افتید یه روز یه عربی رو این دست خواهد گذاشت خب چی بگیم خزرها های مختلف تلفظ شدن توی اسنا تاریخی کوزارها کوزاریان چازار خزار خزار گزر و هزار. گزر همون معنی درستشه. گزماخ به ترکی یعنی چی؟ دولانماخ چرخیدن گشتن. اینو جا نداشتن میچرخیدنش. کوچ نشه مینه. گزر. خب. همین برادران هزاره ما در افغانستان از همین ها هزاره از همینه. ببین چقدر جالب شده. هزاره‌ها نژادن آلتاین زبانشون چی شده؟ فارسی <تصفيق> آذربایجانیا، نژادن نجادن ماد و آزری و ارارتوی و هوری و کادوسی هن. اون منطقه رو دارم اصلا میگم که هیچ کجور نشدید خب زبانشون ترکی شده مثل مصری دیگه زبانشون عربی شده و جالب مثلا پان عربیسم هم جمال عبدالناصر علمش برشده تو اصلا نجادن عرب نیستی زبان عربی شده اینا استعمار بوشتیناست برادر بازم تاکید میکنم نه فارس بودن نه ترک بودن عرب اعظم هیچ کدوم فضیلت خاصی ندارد ما میخوایم تاریخو مرور کنیم ب کجا میرسیم و اینا برادر عزیز هزاره ما که امروز عضوی از لشکر فاطمیونه داره تو سوریه میجنگه داره از حرم اهل بیت دفاع میکنه رو سر ما جا داره واقعا نشود خب خزرستان آرام آرام بر شریان اصلی بازرگانی پا گذاشتن و یکی از برجستهترین امپراتوری بازرگانی جهان و تو اوایل قرن اینا ساختن چون جاده ابریشم اونجا رد می‌شد اینا میگفتن که یا میدید حق و راه راهو یا خودمون قارت می‌کنیم می گفتن ما خودمون پولش میگیم از قارت کنیم به قارتگری خزرها معروف بودن به هیچ‌گیره نمی‌کرد به کس افتخارشون بود یارو مثلا یا انگشتری دستیم گفتم نمی‌گم رفتم خریدم میگه خریدم با سرشون نخوند ببرش هفته اینو خریدم خب میگه آقا نمی‌دونی گرفتم یارو انگشتش هم قطع کردم درآوردم دستم کردم مثلا خب با اینکه فزود دستش شروع کردن بردگیری اسلاو ها رو میگرفتن برده میگرفتن میفروختن به مسلمان ها این آقاییه که تو فتوحات بعضیشون فتوحات سخنرانی کردن فتوحات غیر اسلامی <تص> ها. تو اونجا کامل توضیح دادم که اینا هیچ کدوم مورد تایید اهل بیت این که محسن و موسی اینا تو فتوحات اینا همه رو قشنگ پنبهشو چوب زدم متقن و با دلیل اینا رو میگرفتن اسلاوه ها رو میگرفتن میدادن مثلا تو تاریخ اومدن مثلا بنو علی از منطقه ارمنیه از اونجا برای ما چیز بیارید اسیر بیارید من نوشتم مثلا اینقدر براشون کنیز فرستادیم اینقدرشون باعث شیرده می بودن. یعنی میگفته تو سالی مثلا مثال میزنم 20 تا باید کنیز داشته من بیارم که همون موقع شیر میده خب اینا به عنوان دایی استفاده میکردن هاشون رو بزرگ کنن یعنی کاملا تا جایی که برخی لفظ اسلیو به معنی چی برادر اصلا اسلاو میگیرن اسلاواکیان یعنی اسلاو شمالی داریم شرقی داریم غربی داریم جنوبی داریم جنبین نژاد همین روسا و همون منطقه همون چیزی که اوکراین و صربستان و چه چچن و میشن نش خدمتشون چون حالا خب یه خورده باز قصهشون فرق داره اما همین منطقه خب که خیلی هم هیتلر با اینا چپ بود میگفت اینا نژاد دون و پستن بعد اینا از بین‌برد اینا ژن ما رو آلوده میکنن ژن ما رو آلوده میکنن باید از بین‌برد خدا هم یه کاری کرد وقتی آلمانو فتح کردن یه یه هفته رو ال قلم دادن انگلیسی‌ها، ها از اونور، ها از اینور هر کی هر چی دستش رسید یا آلی بله. اونا داد الان باید بگردن دنبال جن خادرسن جرمن یه لیره نمیاد این کارو رو بکنه خدا حق آدم نجات پرست خب تو صده شیشمه میلادی با ما تماس داشتن تو دوره ساسانیان عذیت کردن تو در لشگرکشی هراکلیوس رفتن به هراکلیوس کمک کردن علای پادشاهی ساسانی سال 661 عرب ها برای این مسلمون ها که از لشکر خود ایرانی ها هم استفاده کرد از ایرانی های تازه مسلمان شده تونستن سال 661 اینا رو واردار به تسلیم در دربند کردن اسمش رو گفتن دربند ببندید اینا بمونن همون بر. پاشون اینو نظاره کردن مجددا اینا تا جنوب قفقاز دوباره اومدن هی می اومدن تا این منطقه که امروز جمهوری آذربایجان نامشه محل درگیری های ما بوده منطقه گنج، شروان اینجا کلی درگیری داشتیم خلاصه بعد از جنگهای متعدد 720 تو ارمنستان شکست میخورن ناتار به اقب نشینی به شمال کوههای های قفغاز نقش بسیار موثری در عدم مسلمان شدن اروپای شرقی دارن ما, مسلم... ما و مسلمانات به این تا اندونزی رو مسلمون کردن خب از این وقت قفل شد ماجرا. چرا چون اینا این وسط بودن اینا نه مسلمون شدن اون موقع نذاشتن هم ها رو کسی مسلمان کنه چون واقعا صد محکم بودن صد محکم هم اون کوهاست که اصل 99 درصد اونه هم خودشون مقاومت میکردن در مقابل اسلام پذیرش اسلام بعدا مسلمون شدن با یه واسطه عرض ارز میکنن شد؟ بله 737 شهر آتیل در دلتای رود بلگار رو پایتخت خودشون انتخاب کردن بلگار که الان روسیه است و های قفقاس شد مرزای جنوبیشون و پذیرفتن همسایگان شمالی قلم روی بنی عباس شدن و امپراتوری روم شرقی شهر دربند ساخته شد فقط برای اینکه نهم لرم اینها رو گوش کنید کتزیاس جغران نویس جغران نویس یونانی میگه که دروازه خزر اسم شهر دروازه خزر قشن معلوم که از اونجا باید خزر رو شروع میشدن با عنوان الباب شهر دربندون اعراب بزن. الابواب درها، باب در، باب الابواب در درها، در بند خزران، در بند شیروان، در بند خزر، بابل حدید. این خیلی مهمه این. حدیده اینجا نگهدید. زبط زمین. ضبط دم دمر کاپی، دمر گافه. در آهنی و توچی. همین الان ما همین الان استفاده میشه. پوک خود ما ما حمدالله مصنوفی میگه دمرگاپی میگفتن بهش بارتول در ب... به نقل در ها میگه می یزگیرد نخستین شایی بود که دیوار دربند را تعمیر کرد تعمیر کرد، بوده، درستش کرد بعد اونا میگفتن یه پادشاه بزرگی اومده بود اینجا ساخته بود هزار سال قبل یه دیگه گفتن اسکندر بوده برم به عنوان سد اسکندر هم معروف. خلاصه اینا رفتن شهر آتیل و قبول کردن این مرز بسته شد طبقه حاکم اینا آروم به یه نتیجه ریستن. این مهم تو این راه تجاریی که داشتن با اروپا متوجه شدن پول تو اروپا یه قشر خاصن چششون اینا رو گرفت <تصفح> نقشه رو کشیدن گفتن ما اگه مسلمون بشین این جنوبیا ما رو حزم میکنن مسلمان ما ها. ما مسلمون شدیم اگر مسیحی بشیم این قربی ما رو، یعنی اروپایی ما را حذف کنن میریم چی میشیم؟ یهودی میشیم هم بخشی از عدیان ابراهیمی میمیند چیزی نمیتونم باید چون دیگه باید نیتونم باید نجس و کافر رو چون جمعه نمیتونم کافر کافر هم بودن باید گرد میپرسته ما چی باشه؟ خب گفتن ما و اینا ها جزء معدود گروهایی در جهان هستن که یهودی شدن چون میگه یهودیت تبشیری نیست شما نمیتونید دینت رو انتخاب بکنید باید مادرتون یهودی باشه اینا یهودیت رو چیکار کردن انتخاب کردن من یه چیزایی مثلا یه چیز رو کد میگم باز نمیتونام میگم مثلا در مورد اینها پرستش ببخشید فالیک هم ذکر شده اگر میخواید بدونید در ایران هم بعد از حملات متعدد آثارش مونده عکسش هم میتونستم بیرام نشون بدم تا دیگه <تصفح> نمیشه زن <تصفح> بچه مردم نشسته خدمت شما عرض بکنم منطقه خالد نبی در اثر حمله همینها آثاری ازش باقی مونده در استان گلستان ما استان گلستان یادتون در دیوار ساختیم که نیان ببین چی میگه بود 740 به اینو بنجامین فریدمن میگه پر پرست... اینکه فالیک برز شده بوده سال 740 بعد از میلاد بولانشاه پادشاه خزرها یهودی شد جورج ورداست میگه سال 860 این همش پس میلاد میلادی دیگه هیئتی از خزرها به قسطنطنیه میره و اونجا میگن میگن ببین یهودیا دنبال اینا یهودی کنن ابر مرا معامله کنن چیزی گیر ما میاد یا نه یعنی ما یهودی میشیم ما کاسب شده بودن اون بوری که اونجا نشستهن سر راه نشستهن پول در نمیوردن کاری نداشتن که ملت میمدن حق و حساب میدن عوارضی بود کار تو میکشتن رد میشدن کار تام نمیکشیدن هیچ وقت سرشون میذاش میرفت خیلی خطرناک بود گفتن ما از زمان‌های بسیار قدیم خدا را پروردگار همه چیز میدونستیم اما اکنون یهودیان ما رو تشویق میکنن که دین و آداب و رسوم آنها رو بپذیریم عرب هم ما رو به دین خودشان دعوت میکنن و به ما پیشنهاد هدایا و عدوا می میدن تو چیکار ای؟ تو چی میدیم وسط؟ اینجوری بوده فاز. یهودا اینا مکاتبات داشتن با یهودا هالوی، ابراهیم ابن داوود و به یهودیت خاخامی گرایش بده بدهکرد. مکاتبات خزر خودش یه سرفصل برای مطالعه اگه خواستید. تبادلات و نامه‌هایی که بین اینا رفته بین حسدای بن شفاروت منشی خلیفه وقت کردوبا قرتبه در اسپانیا یوسف ابن هارون و خاقان خزرستان قلاصه که اینا یهودی شدن و بعد حالا به زبانی که مکاتباتشون رو بگیرم براتون آرام آرام و بعد آرام آرام در اروپای شرقی روسیه، اوکراین، لهستان، لیتوانی، بلاروس پخش شدن و تقریبا اکثریت یهودیان اون منطقه همین ها یعجوج و شما درست گفته بودید یعجوج و ماجوج برمی‌گردن و فتنه می‌کنن و جنایت میکنند. اینها شدن یهودیهای اشکی نازی کرونی یهودیات دو گروه دسته‌بندی میشه. از یک یه کیس یهودی سفاردی و یهودی اشکی نازی یهودی سفاردی های واقعی از نسل حضرت اینا تو ایران هستن تو عراق بودن اینجا پخش شد. یمن مثلا آره یمنی یه قصهی دارن جدا سه. گفتم را فکر کنم را یه روزی هم بعد اونو باز بکنم بحث شد بعد و همین فلسطین نمیدونم در دوره بنالعباس اومدن تو بغداد این یهودی های سفارادی بعد از اینکه که بنالعباس تضعیف شد آرام آرام اروپا قدرت گرفت رفتن به اسپانیا از اونجا رفتن به هلند، رفتن انگلیس. اروپا از اون بخش افتن. اینا سفارادی هم. اما عشقنازی ها که امروز قدرت تو دنیا دسته اینا هست. توی اسرائیل رئیس جمهور نخست وزیر اشکنازی میذارن. یعنی اونان خودشون کلی بین این سفارادی ها بندگونه خودا. یهودی واقعی واقعی حالا ها بندگونه خودا. اینا همچنان نورپاکی نیستن البته بگی. چون هم صحیح نیست دارن. ما یهودیت از صحیح بگم. بعد، اما اینا اصل قدرت پول داره اینا دسته مثلا خود نتانیاهو اصالتاً لحستانیه شارون آدمکوش قبل این مثل همین بود اون مال بلاروسه و میبینین اینا بورن حتی خاخامهاشون این کلاه خزدار رو روی سرشون میذارن به عنوان لباس دینی اما این کلاه پشمی خزدار مشخص مال کجا بوده این دقیقا هم کلا که در قفقاز شما دیدید چه؟ بسرشونس. برای هم میگه این مطالعات میان رشته ای شما مختب... اصال فرهنگی زبانشناسی تاریخی جنتیکی همه رو کنارم نیبینیم اینه و واقعا امروز نگه عجو جامعا عجو جامعا یفسدون و فلرس <تصفح> رو آدم دارم میکشه <تصفح> یک بحث اینجا مطره آقای آرتور کسلر یشون نویسنده یهودی مجارستانیه کتابی داره با عنوان قبیله سیزده هم اگه ما دوازده قبیله داشتیم یه قبیله سیزده هم هم داریم که از ما نیستن یهودی شدن اینا یهودی های خودش مجارستانی یهودی مجارستانی احتمال از همه خزر هست. خب اما این مطالعات جالبی انجام بعد های سری جنتیست و من ها گفتم بررسی میکنیم مثلا سی و سه تا دندونی که از قرون وستا توی قبرستونی مال یهودی بوده بود رفتن کشیدن بیرون دندوناشنا مطالات جنتیکی کردن دیدن با آبرایسیت میره تو اینا اثری از شامات لونت نیست هشتاد درصد بیس درصد چل درصد سیوهب درصد ژنا همه این طرفی این بنیاد سهیونیزم داشت نابود میکرد پس سعی میگن ما مال اینجا، این و دوباره چی؟ برگشتیم اینجا این دروغ رو دارن میگن دیگه حالا ببینیم چی شد. به غیر از کسلر، چاسا میگیم کسلر مطالعات زبان شناسی تاریخی کرده. آقای آران الحک، محقق یهودی، ژنتیست، زیست شناس تکاملی اسرائیل آمریکایی استاد دانشگاه جانس هابکینز ایشون نتیجه اینه که زمین یهودی اشکنایی جنگ... منتج... ریشه آن در ترکی، اسلوواکی، جنوب آسیا و بخشی ایرانی است. و در هر حال غیر شامی است 38 درصد اجداد یهودیای اروپای مرکزی هم نه اروپا شرقی قفقازی داشته یعنی همین منطقه بوده 38 درصد آدم کمی نیست و یعنی خیلی درصد تو مرکزی که اینا فکر میکنه اینا مثلا واقعا یه زمانی اینا فلسطین بودن کوچاندنشون آواره شدن فلان نه این یهودیزه شده ها اتفاق اجیرو قراره کسی نمیاد روی این کار ببین واقعا اسرائیلی بره کار بکنه بعد ما دو تا تحقیق پژوهش درست حسابی انجام نمیدیم چه معنی من نمیرم مثلا موسسه رس رویان اونم چیزی تخلفا اینا بیان این کاری کنم، من امید به بذار به چنین چیزی ندارم بین دانشگاه ندارم که ببینم مطالعات دقیق اینجوری انجام بدن ما دسترسی دا داریم اینا دیگه علم دهنای همه یا یعنی نه هر کشوری هم خواستید یه پجوشگر تو تیم پژوهش کور که نیست بیاد بشید نگاه کنه بعضی از این این بدبخت و این علاقه بیچارش کردن وقتی نتایج گذار شداد بیرون گفت من آدم علمی هم. با این بازیاتون کاری ندارم نژادم برای مهم نیست اینی که هست یهودیان شرق و اروپای مرکزی نوت درصد کل یهودیای های جهان هن من جمعیتشون چقدر یعنی اون یهودیای خاورمیانی تعدادشون چی خیلی کم چرا؟ احسن مسلمون شد های آنبر جاید اومدن به اون ایمانو دقیقا در مورد فلسطینی ها این برعکس بوده یعنی چی؟ یعنی ژن اون جنی که اینو دنبال جنه سامی دنبالش می گردن. جن شامی دنبالش می‌گردن و ژن شامی دنبالش می‌گردن، سامی همون شامیه، خب؟ که میگن فرزندان یعقوب علیه السلام هستن، در کی الان هست؟ مردم مسلمان عرب ساکن فلسطین. که شما می‌دید سوریه ها مثل مصر زبانشون عربی شده. مثل فلسطین زبانش مثل لبنانی ها اینو واقعا از همون نشادن. الان با تو باش حالا جالب این ترکیه یا این سهی نیستا دست به کار شدن دارن شر رو برسر هم میکنن خب آقای دکتر اشرفیان بناب جنتیست ایرانی ضد انقلاب درجه یک بیوهی دوتش میکنن تهه اسمش هم اله هم دلیگه بناب داره که بفهم مال بناب تورک خودش خب ایشون اومد یه کار علمی انجام دادن جنتیسته شروع تحقیقت میکنن از کمبریج بود بعد نتیجه چی شده نتیجه اینه که من براتون اینا از رو بخونم 4 خط تو خیلی خوبه اقوام آریایی اصالتاً ایرانی بوده و از حدود 11000 سال قبل در نواهی مختلف فلات ایران به ویژه جنوب غربی ایران و در های زاگرس ساکن بودند مطالعات ژنتیکیشون اثبات کرد جمعیت ایرانی که با زبان‌های غیر از گروه زبان‌های هند فارسی تکلم می‌کنند به ویژه جمعیت آذری ساکن در فلات ایران ریشه جنتی مشترک با اقوام ترک زبان ساکن در ترکیه آسیای میانه قفقاز و اروپای شرقی ندارند. چرا ندارند؟ به خاطر این کوه. الان شما از مشهد تا تهران این همه را هزار کیلومتر میای زبان تغییری نمیکنه آیا شما میفهمیم؟ ما می مشهد چی میگه؟ میفهمیم سبزوار چی میگه؟ نیشابور چی میگه؟ همین تهران خودمونو هنوز چند کیلومتر میری تو کوه عوض میشه چرا؟ چون اینجا باز محل تردد بوده کوه نگه میداره این فلات ایران همون جایی که تونست حفظ بکنه مردمش جنوب دریا در کوه شرق کوه شمالم هم دریا و کوه مثل یک ظرفی آقا جنی وارد نشده نجات وارد چرا شد اشکالی داره؟ نخیر نخیر ها مثل ادویه تو غذا بوده همین اینجوری نبوده که اثری بگذاره کن کن بشه ناخیر انسان شناسا ها امروز میگن میدونن که بشر اولیه رو میگن از آفریقا آمده دیگه میدونیم مطالعات انسان شناسی میگه بشر که میگن چند میلیون ما بهش میگیم بشر سانان همون که دو مادر رباتون داریم بهمان نس ناس ازشون یاد کردیم ناندرتال ها این پذیرفته شده در دین ما که موجودات شبه انسان بودن قبل از این انسان هوشمند، خب قبل آدم و حوا زندگی میکردن و اینا بهشون میگن نسناس آیا امکان ازدواج از نظر زیستی بین ناس و نسناس فراهم بوده؟ بله بوده و اینا بچه دار میشن اگه ازدواج بکنه. آدم و هوا انگار یک گونه متفاوتن که خدا آفریده متوجه شدید؟ اما امکان ازدواج با اطرافینشون هست بعد آبا بچه ازدواج رو دن ازدواج با کیا ازدواج کنیم؟ با همین روایات دویم اما هم صادق با هم قبلن هم بودم اصلا فرشت ها اونا رو دیده بودن دیگه می گفتن توزیه می با اوشترش کنی <تصفيق> خون بریزه رو زمین من یه چیزی میزم شما نمیدون این یه علا و مالات بله ندارن و برعکس شاخص های تمایز جنتیکی آنها مینه افستیشون با سایر گروه های ساکن در فلات ایران به بیجه فارسی زبانان نزدیک به صفر است <تصفيق> یعنی اصلا تمایز ندارن یکی برای. آزربایجان چون منطقه کوهستانی بود خیلی سخت تأثیر ژنتیکی میبذیره کسی تو کوهها نمیره سخته برای کشورگوش های کار اشتباهیه دیگه همین بربرا دیدی گفتم ما شمال قفواز بایی میسیم فیلش کن ما هم تا کجا تونستیم مرزون نگه داریم بازم که های کوه کوه کوه باید جای باشه دریا این انسان اولیه که اینا میگن انسان شناس ها میگن میگن تو آفریقا بوده اولین جایی که اومده در واقع وارد شده این صفحه عربستان دریای سرخ کم امق صفحه عربستان و صفحه آفریقا جدا نمیدونن تو مطالعات میگن وارد اینجاش و اولین ظرفی که انسانها در اونجا قرار گرفتن منطقه پیدای کردن بر زیس خیلی خوب مناسب همین ایران بوده. نه چون ما ایرانی ما اونوری دارن میگن وایکینگ ها هم از اینجا کوچ کردن رفتن الان کلی مطالعات ژنتیکی دارن انجام ننجام میدن زبانشناسی دارن انجام میدن منطقه خیلی سال پیش میگن ده هزار سال یعنی بعضی از این اقوام اروپایی که الان رفتن تو اروپا اینجا بلندشون رفتن بشر اولی همینجا همین ایران و قبل از کشف قاره آمریکا، ایران مرکز عالم بوده تو نقشه شهر نیمروز ما بر همین اسمش نیمروزه یعنی اگر نامرده برشتن گیریم ویچ رو گذاشتن مبدأ، باید نیمروز واقعا مبدع باشه کسی نیبره اینا رو پیگیریم یا پیگری فرهنگی میخواید اینو آدم میخواد مثلا برید سازمان مده فریاد بزنی سر سلینا او, او کجا دارید میرید؟ ما افتخارمونه ما دنیا رو متمدن کردیم او باشه الان هم افتخارمونه داریم از مستز افتفا میکنید میبینید؟ <تصفح> چون تو ناخداگاه فرهنگی دینه تو دفعه از مظلوم رو فضیلت میدونید نه یا رو وحشیه که قارت و فضیلت میدونسته تو امانت داری و فضیلت میدونستی اون آدم کشتنه اون خیانتو بله یه صلوات بفرستید دکتر آریلا اوپنهایم استاد دانشگاه عبری اورشلیم زنه ایشون در برخی از اینها تا 80 درصد ژن ترک مغلی رسید از خفش کرد <تصفيق> چرا؟ چون صحیح نیست موزیر سالون بود نیتانی ها همه برون مغلستان همه یه مادریش میکردد اونجا خب بلستینش که آزاری تو تش برید همو مکران مکران یه جا بردید بس خود بله این که این خزرها ریشهشون چی بود برخیم؟ یعنی قبایل هونها بودن هون گریه اسم میکنی کشوره؟ بارک الله یعنی سرزمین بلگریه بلوارستان هم دور استفاده میشه آرام آرام به خاطر اینکه فرهنگ قوی نداشتن در اسلاف ها چی شدن؟ حضم کامل شدن هیچی ازشون هم اونی که اینجا بارده اصل بارده اینجا شده آرام ما آر رو اومده اینجا خب شمشینی که خودم دارم استفاده می کنم اسمش شمشینیه اصله که خودم دارم اونورم دارم اینجا هم دارم میوه که خودم دارم میگم اما یه انار میبینه اینو نداره ببین چی میگیه یه انار اونم میگه انار میگه این قزاتون چه انقدر خوشمزه است تبریزی ها میگه کوفته کوفته ترش خود با یه کوفته اینو میگه موان طبیعی رو اسم میذاره لشکر کجا وایستیم دم اون کوه بزرگه گراداغ دم اون رودخونه وحشی دله همین همینا فیروسکو میری دله چای ندارین تو مسیر عجی چای رودخونه آبش تلخه آق فلان گرا فلان موان الطبي رو اما شهر تورو که نمیتونی اسم عوض کنی تو اسم شهر اسم شهر چه؟ مرند اسم شهر چیه شهر, شهر آب ارمیه. اسم شهر تو چی؟ اردبیل، آرتبیل، دشت مقدس. آت زر بادگان، پادگان و محل نگهداری آتش. موستات آتشکده بزرگی که در خراسان، یکی در فارس، یکی در آذربایجان. حضرت زرتوش اونجا به پیغمبری رسیده. توی مرغرموتن تاریخ میان زرتشت آذربایجانی. منطقی که رفته وحیو گرفته کوه سبلان بوده. میگن چشمیه ها های بهشت اونجا است برای همین به اردبیل میگن دشت مقدس ارت ارت یعنی مقدس همین آرتین این اسامی از همین گرفته شده ویلم یعنی چراگاه دشت تقدس داشته برای زرتشتی ها اینو عموم این اسما نه اینجا بالای ارس اسمش شرط چیه؟ دربند الان میگه دربند دربند نمارو نقشه به خدمتتون نشون خواهم ده. بعضی از اینا رو باید برید توی این متون اروپایی ها. اینا ببینیم مثلا به ها بلایی سر اینا وردن اینا سر راه بودن بعد هر که از اروپا خوخوااست بود پایین باید اق سااهو میداد دیگه بعد مثلا نقل کردن ببین وایکینگنگ که خودش بابای همه وحشی ها بوده اونا اونا کلکوپرشون ریخته بوده وقتی رد شدن میگه ما که اونجا بایم توی جمجمه دیدیم اینا آب میخورن توجمجمه آدم جمجمه تقریبا خوشگلش میکردم تو جمجمه غذا میخوردن آب میخوردن یه حساب کار رو بس ببین. عقل سوتو میدیا. نگونی چه میت درری. خب بعد اینا مثلا از چیز اینا هم از همین اقوام بودن. به بجاناک مسلمانان ناراحت چیز کردن. چه نداشتن بجاناک تو جنگ ملازگرد به چنگا کمک کردن. اول تو بی... تو سمت بیزانس برین. هر کی بهشون فورمیاد کمک می‌کردن. اول سمت بیزانس اونوری بودن جلو ترکای سلجوقی و عیسان چنگیدن یعنی علی هم‌نژادای خودش آخر جنگ بر آقا برگردن اومدن به اینا پیپستان فاتح چیز خوندشو بیزانس همین همینجوری میشه دیگه آروم آروم میگه میان کل ترکیه رو میگیرن و شمشیرم دست زبانم تغییر میدن اینجوری خب منطقه آیا ما بالای قفقاز ایرانی اصلا نداشیم چرا اسم این منطقه رو همین درو در ما بهش میگیم در ری یعنی الان وسط این کوه ها اونم بتونه به شومیدم بهش میگن داریال اونا که بالا میومدن بیمیگفتن داریال دار داریال دار یعنی تنگ یل هم یعنی راه راه تنگ راه باریک ما میگفتیم در الانان الانان یک قوم ایرانیه ایرانی تبار شماله چیز هن انا در اوسطی زندگی میکنن زبونشون ایرونیه به زبونشون میگن ایرونی کلی لغات مشترک دارن و هنوز سالم موندن به هیچ کس هم اینجا نمیروم بدبخت داره رو بگه خرید به چندمن جکاره ای در حد همین دیگه و هم دو تا کنفرانس ما در راه دوری یهع قشننگ هم دسته کن بدن و خورا و خوراه و ریشه داره مثلا حالیشون مثلا تاجیکستان الان خوشحالن که مثلا شخنامه رو بردن رو نمایی کنن خبر نداره که تاجیکستان جمور زربایجان دومه این که بهتون گفته، جوری اسرائیل تو تاجیکستان داره کار میکنه که تو جمهوری آزربایجان اینجوری کار نکرد چرا شون جمهور آزربایجان باز یه تشیعی داشتن یه چیز میشود اینا رو کرد امام حسین ازشون گفتن پرچنم حسین ممنوعه تو جمهور آزربایجان اون طرف تو تاجیکستان داره هم میکار میکنه چون تاجیکستان اون منطقه‌ای که شما نفوز کردی رفتی تو دل اونا دل؟ ببینید چی نمیشتن؟ میگه 463 سال قبل از میلاد مسیح در اونجا همون رو یک دری از صد آهنین ساخته شد که آتیشش نتونن بدن یه فلزی درست که نتونن آتیشش بدن و قباد یکم هم شانشا ایران در آران چندین شهر میسازه یه صد آجری میسازه تو شیربان و دروازه آلانها یه همون در آلان پسرش خسرو و شیروان تا شهر در... راه بردی دربند و دجوه در آلانان دوباره بنا کرد تو شاهنامه فردوسی همین اومده میگه یکی مرز ویران و بیکار دید ز دریا به راه علانان کشید که ویران و بوم ایران زمین به آزادگان گفت ننگ است این یاد این جمعش بکنیم اینا تو اشعار فردوسی الان هست شبه جزیره آب شرون آب شورون همین الان کجاست؟ باکو یه برامده یه هست توی دریای مازندران فرو رفته خب اون منطقه بشه میگه آبشاران ببینید خیلی مهمه دوستان اینانت داشته باشید اول بریم شهر کرکت رو ببینیم این منطقه که کرکت گوهر میشه یعنی شهر کوروش اول آمده این منطقه نگاه کنید از اینجا حمله صورت میرتد بالا کوه ها رسونده امن کرده اینجا رو پس داده همه اینا رو اینجا آمده چیکار کرده بریم ببینیم خیلی شگفت انگیز واقعا و انصاف بده به عدید. این مسیر راه به شمال بوده این کوه هایی که شما می بینید این راه شما لامیزن و عکسش باز بشه. اتوم ببینید. یه دشت خیلی زیبا. این راه قدیمیه این سه هزار سالی راه بوده. میرفتن بازرگانان همه از اونجا جا وقتی میرسه اینجا به نظرتون چی می بینه؟ کی میرسه؟ وقت غروب قرشی عجیب. یه چرت عواملت طبیعی رو می بینیم. اینکه راه داره به سمت شمال میره دیگه درست نگاه کنید ببینید اینکه ایران من خود بچخونه داشتم این آذربایجان نقشه علانیمون خب این که به سمت شمال رفته این راه اصلی رو می این سمت راستش دریا سمت چپ و مغربش این راه ببینید تا صورتی میتونید اصل عکسش رو ببینید خب چی می دیده این راه اصلی سمت غربش و مغربش تا چش کار میکنه چش از زمین گل میجوشه بهش میگن گلفشان چشمه های گل قرآن چی میفرما میگه خورشید را دید که در چشمه گل فرو میره تا آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید به نظرش آمد که خورشید در چشمهی گلالود و سیاه غروب میکند او این کتاب موجزه نیست در موضوع زلغرنه این داره میگه با ما میدونین بودوات کورا شده دقیقا شما خورشید رو میبینید تیه چشمای گل برو میره ببینید از زمین گل میجوشه اینا چی اینا بالای این چاهای ظاهرن نفت و ایناست گلش هم سرده ها خیلی مهم این منطقه برای بشریت حالا میگم چرا بسیار مهمه. اینا دو دستی دادن دست علیف نمیفهمند این کل فرهنگ و تاریخ و دین دینت مطالعه میخواد کابوشگری میخواد همه رو اسمار رو دارنم تاریخی رو سهیونیستی اونجا دارن شخ میزنن. مشاوره الام علیف اسرائیلی از اسرائیلی زن فرستدن مشابه تو دفتر دار اونجا فرندو شفر بهش میگه چیکار کن چیکار نکن براشون مهمه اینا اصالتشون قفقازی این عشکنازی ها سه نیست های عشکنازی ببینید همین جز نمیگه به منطقی میرن این گلار هم به تنشون میزنن بر بیماری پوستی رو نمیدونم چیزا هم خوبه گلفشان گلفشان چیزا میگن پلچخ بولکانه پلچخ بلاغه، پلچخ یعنی گل به ترکی اینو میگه بعد چون ن... سر چای نفته ازش آتیشم هم در میاد آتیشم هم شب هم خیلی سحنه های عجیب قریب ده برای مهمه برای تو توضیح میدم ببین مردم میره اونجا برای بازدید منطقه باستانی قدیمی از قدیم محل توجه بوده چرا محل توجه بوده؟ خوب دقت کنید آب که بوده خاکم که بوده میشه گل گاز میزنه بیرون و آتش میگیره آب، باد، خاک اناسر عربعه هستی که بر بشر دیگه خدا بوده بر بشر چارتاش یه جا پیدا میشه و چون تو دل زمین میمه بیره اینو چی میدونستن؟ یه شگفتی و اعجاز الهی میدونستن؟ بسیار براشون چی بود؟ مهم و مقدس گل به انگلیسی ماد تمام شد. مادها ها از وجوه تصمیه چرا انقدر برای سنیست زبان شناسی مانده؟ چرا برایشون اشیا عتیق, عتیق و عتیق بازی و این چیز اینکه بتونن جهت بدن به تاریخ بتونن عراجیف بار من که امروز آزربایجانی اصیل متمدن ما دنبال اجدادش تو مغولستان بگرده شول باش امزا. خاکستر به سرمان باد. <تصفيق> دشمن قوی نیست. اوج ضعف است. که ژنتیکی دارسم ببین یوروب اصلا میگم ضد انقلاب فلان و امان قول خودش میگه آقا دیگه اینو نمیشه قایم کنه میگه به قل بشو از زیر میکروسکوپ این در اومده. اسم شهرو به زور الان تو کن. ریختم کنار باکو 31 اشتباه نکنم روستا بود یکیش زبانشون ترکی بود سی تاش تاتی و تالشی بود الان برعکس شده. الان تالشیان با ترکیه آفرزانن از من مشی زمان ترکی ندارم عاشق زما ترکی من بدونیم استفاده ما هم بشه تدریس هم بشه هیچ هیچ, هیچ. خب. اما این که بخوای از این این استناد کنی که چی همین بابای که رفته باری از شما جلسه داشته یه توییت داره خوب من رو میخواستم بزنم خرد به خود هم بابا و بعدش هم اکانت ما رو بستن یه ساعت وقت نشد رسما برمیگردم به مذهب شیعه میگه مذهب انگلیس ساخت همه میردم تویچ داره مذهب چی؟ انگلیس ساخت میره چرا؟ به خاطر اینکه که های ما حنفی نشدن چرا؟ خودشونو ترک نمیدونستن اینا شیعه شدن اردوغان نمیگه ترک میگه آزری, آزری اونم میگه خود اردوغانم اینو میگه خب دو از غذا فرهنگ اهلبه و تو و تو آذریاب میگم یکی کشور هم با فاصله والا فرودگاه اردبیل که میری زده به شهر نام از تبولف یا از تاس آاشقان نداره هم که خوش آمدید اینجوریه رهلت از ذافف سرعللهیه ها اونجا تعطیلله خودشون تعطیل میکنن بازار مازار همش رو تعطیل میکنن این؟, این فرهنگ رو نگاه بکنید بعد بگذاری چرا میگن؟ چون میگن عجب این مذهب مانعه حز میشه باید اینو از بین ببرده کاری که تو خوزستان کردن گفتن عرب خوزستانی مادامی که شیعه باشد سمت ما نمیاد یه رفتن روی عرب شیعه ویروس وهابیت اینستال کردن شروع که هم کار کردن میفهمید اینا با چی جلسه میذارن چی به چیه چه اتفاقاتی داره میفته اینا به کجا یه چک نمیکنید شما قبلش اینا ما بهشمون آدم وطن دوست و من نوشتم واقعا اعتقاد من اینا آدم وطن دوستیشو نمیدونم بعد مراقبت کنین افرادی که میبینین اونا نفوذیان بعضی اینا رو میفرستن اینا کیان هماهنگ میکنن این جلسات اونا خیلی خطر خلاصه این بسیار مهم بوده اون منطقه الانم منطقه گبوستان ببینید از زمین چه ششهای گله سازهای اونجا درست که همین مردم این اونجا گله سرد و داغ هم نیست. ببین ببینو آیه نتانیاهو چی میگه؟ محتیقه. ارتباط فلسطینیان با سرزمین اسرائیل در مقابل ارتباط چار هزار ساله یهودیان با این سرزمین هیچ هست دیدی خوشون رو برد کجا چار هزار سال چیو میگه؟ حضرت ابراهیم رو میگه که یه بحث موضوع جدایی من مشهد یه نیمچه سخنانی کردم یه ککی به تومونی ده انداختم الو اونم کار دانم انشاءالله اونم وارد میشم بحث خواهم کرد خب حضرت ابراهیم هم درست شما از نوادگان حضرت ابراهیم هستید اما در مورد که آقا واقعا یهودی چقدر خالصه آیا کسی داخلت نکرده از که یهودیت تبشیری تبشیر رو کنار گذاشت بحث زیاد داریم خب حضرت ابراهیم هم زادرست نشینده اورام اسم ارام همین شمیرانات هره یهودی خوش اور میگه در اور به دنیا این منطقه اصلا به شهر میگفتن اور, اور ار توی اورامانات اور اور میه بعل اربیل کلی خانومش که دختر هم شده سرای همین تو با اصلا سرای چیز داره اصلا اسم ریشدار آذریه ودقال ابراهیم لعبیه آذر قرآن که اسم هیچ رو نمیره تاکید داره بگه اموی حضرت ابراهیم اسمش چی بوده آذر چرا اینو میگه ناتانیالو مطالعات جدیدی بر روی دی ان ای به دست آمده از یک مکان باستانی فلسطینی در شهر همون اشکلانه اسرائیل آنچرا که کتاب مقدس میدانیم تایید میکند اینکه منشأ فلسطینیان در جنوب اروپا است بعد وقت اروپایی کرد که فقط شما اینجا نباشید خودشون هزار ساله اون مطالعات چی ژنتیکی رفتم سراغ همین مطالعه ژنتیکی همین که این داره میگه رفتم پیداش کردم مطالش همین رو پیدا کردم همین رو مونداد بریم بشینیم با جنتیستا دیگه زنگ بزن به این آقا این یعنی چیون یعنی چی فلا برای میگن چه کاره مختلف دخاله بیاید بگید که من نیوم نگم چی به شما حافظ دادم بگه خب اینجا به چی میگه نتانیاهو هم یعنی خداداد دیگه الله هردی نتان یهوه خدا داد <تصحنت> کتاب مقدس به مکانی به نام کپتور اشاره میکنه که احتمالاً کرت امروزی است هیچ ارتباطی بین فلسطینیان باستان صام امروزی که اجدادشان هزاران سال بعد از شبه عربستان به سرزمین اسرائیل آمده وجود ندارد یه ها برما شده چی ژنتیک اینا رو ببین نخس وزیرشون توییت فرهنگی میزنه داره هویت جعل میکنه ما هویت بچه همون دارن میدوزن کسی نیست بیاد دفاع کنه نخواستیم بسازید چرا ابن تیمیه هفتصد سال پیش میگفته مآز الله این یکونا اونا ابرا ابراهیم کردیان پناه میبریم به خدا که حضرت ابراهیم کرد بوده باشه چی مطرح بوده همون موقع ها چه اشکالی دارین رفت کرد به شما؟, شما نجات پرستید چرا همچین حرفی میزده بیدونی که از نظر ژنتیکی کرده و ترک تقریبا یکی ترک ها یعنی آزری ها تقریبا یکی آزری ها،, ها،, ها یه جنتیک دار. جنتیکی اثبات کلی کلمات کوهنشون که اصلا فقط با همین زبان قابل هجی کردن خوراستانی زبانشون فارسی دری بود اینا که حاکم شدن این فارسی رو کردن زبان صدا سیما. زبان آموزش، زبان بروکراسی، آرام آرام گرف. و اینا بعضی جا مثلا همین الان شما مثلا بری الان با یه کورد صحبت کن ریشه زبانیشو تک تک کلمات رو ریشه ها می‌کنی می‌بینی می‌فهمی. درسته؟ خب؟ اما متوجه نمیشه چی میگه. اینا متوجه نمی‌شدن. در... گفت دری نگو. من نمیفهمم چی میگی. نه. مرکز بین... الان دری شده دیگه در اینا ببین د... فارسی دری اگه بخوای بری میشه همون خیلی شرق، شمال شرق میشه. اما الان میشه گفت همینه. اصلا مولانا بلخی بوده فارسی دری بلد بوده میاد میره سراغ شمس تبریزی که تو آذربایجانه، آزربایجانه نمیفهمید چی میگه عدت مغلام در رفته بوده از شمال شرق به شمال, شمال شمس تبریزی اهل خویه برمیگرده میگه که ولی ترجیح پنجم در نیابم جز به دستوری که شمس دین تبریزی مرا باید بیا بوری میگه این نمیگه بیا میگه بوری من نمیدونم بوری چی چیه مرا گویت بیا بوری که من باقم تو زنبوری که تا خونت اصل گردد که تا جانت شود نوری خب بوری آن تو چه زبانی زما زبان تاتی تالو تا همین هم بوری ما زندرین بر, بر برو هم. همین اندرسه بوده میکنه نکنه همینه هم هم هم هم هم؟ خدا پدر رو شما میگه چی همین هم هم میگی نه لک چه میگن بیا نشستن خب ایرانه دیگه همه نشسته نشستن این نفره میتونن همون ترکیش رو گفتیم جا آره بریم که اصلا ما زندره یعنی بریم آره آره. خب. خب این نفس استفاده میشده یه خورده اعوهش این ورون میشه حالا نه که مثلا استانبولی ها الان غیرقی رو میفهمن چیشی میگه های اره ششورهای ترک زمان با هم جلسه میذارن همه مترجم دارن گوشی کنارشونه والا انا اصلا نمیفهمم قيرغيزي ها حرفا ما يکلمهش نمیفهمم اون لالو یه چیزی میشنویم یوی من واقعا نمیفهمیدم یه یه چیزی ترجمه کردم گذاشتم تو توییتر نمیدونی ندر داره تونتن از این شیش سیخ شیک سیخیش هزارای ترکی داره میگه قیرغیزی داره میگه اصلا مخت سر کاپی کاپی نمیونم چی چی من اون واسه گوش میشنیدم نمیدونم داره میگه گز دختر یا داره میگه گش زمستان نمیفهمیدم داخل پرانتی میشتم هم زم نشم هم زمستون داره میگم هیچ روزم نمیخورد احتمالاً چیز دیگه هم داشته میگفته خوب قاپودا ایت قاپتا قططقاطی قبطقاطی قسقس باسا قس با он бөгелекке он көбелек келіп қонды он бөгелек он бөлек он көбелек он бөлек кетті абат абдырағыш па абақ абдырағышпа абат абдырағыштау абақ қодыраңдағыұштау омартаға балалар барар балаларды аралар талар қырқада қырықарқар бар қырқарқарда ағ бар алты арқарда бар үш кіші ішік піштім бес кіші ішік піштім неше кіші ішік піштім шыны еңбекшілі өрмекші елеуші елегіс елеміздің елеуші елегіш و نمی فهمید چی میگن چجوری متو میخواهم متوجه بشی به خاطر اینکه وقتی شما زبانو میگیری آقا شکل عضلات دهنش مثلا چینیا برای که بتونه خوب انگلیسی حرف بزنن باید یه عمل جراحی انجام بدن با این پرزی زیر زبانشونو یه خورده کات کنن زبان بالاتر بتونه بیاد بتونه خوب انگلیسی حرف بزنه نمیتونن هندی ها چجوری حرف میزنن دیدی دیگه هندی بهرگش به انگلیسی که شما کشور ما رو نابود که به انگلیسی صحبت می‌کنند، خوندیم خب نمیشه الان شما مثلا اما این کشورها به انگلیسی صحبت می‌کنند. اما این کشورها به انگلیسی صحبت می‌کنند. اما این کشورها به انگلیسی صحبت می‌کنند. اما این کشورها این اثری که در فک و عضلات خیلی نامفصل من چی میگم به شما دنیای بگذرید. آره واقعا الان هر کدوم اینا رو ما میگیم زخمی می‌کنه فدای یه نفرم میشه توییت میاد. ایشون اینجا اعاره ایگو والله اینا رو کجا ببینم؟ زاینیستار من میدونم چیکارش می‌کنم این الگا رو نمیدونم چیکارش می‌کنم. خب کاری ندارم. هرش پس این چشمه‌های گل این شهر در بند این اول ببینید کجاست؟ این شهر دربن این همون شبه جزیره آب شرون ببین این کوه ها تا لب دریا آمده بوده ببینید اینجا که کوهه میبینید دیگه میرسید به ساحل شان هنون این دیواره هست میبینید ما بریم اینجا رو بزنیم آنلاین خودم ببینیم که پادشاهان ایرانی و ایرانی همیشه اینو چگاه بازسازی میکردن؟ باسازی میکردن چی اینا حمله نکنم بلا؟ زنبتر مردم بیچاره میکردن آرد میکردن خب حالا این آقایی که بلند شده اومده اینجا تو این منطقه از این چشمه های گل رد شده خب شاید از نظر من حتما انسان بسیار شریفی بوده و ما کوروش قبل از آشنایی با حضرت دانیال یا ادم بعد از آشنایی با حضرت دانیال و توحیدش، یا یه دیگه است. اونم که یادم ادم بدوی نموده قبلش، مثلا حضرت سلمان قبل از آشنایی با پیامبر بعد از آشنایی. قبل از آشنایی پیامبرش میگه مذهب باطلیه. بعد از آشنایی با پیامبرش آشنای من اهلل الود. هم همینه. کنار حضرت دانیال قرار میگیره ببینید خدا تو قرآن در چطور حرف زده؟ امروز ذوق بعد ما اینو ول بکنیم این رو که امروز نگره هموش آبان اومد الان نرن سر قبل کوش نه چی کار ما خیلی بیرگیم سکتی نمی کارم دست سینا مثل کاروی فرهنگی کار بلد نیستن کارو دست ما هم نمیدن نگه یعنی بهشون بی آ بلد نیستی باید سکن رو ما انجام بدیم نه تو قدرت دلد همش مال خودت من میرم فقط سخنرانی میکنم خوبه؟ خوب. حالا این آقایی که اومده اینجا آیا چی اثر دیگه هم ازش مونده؟ چه اصالتاً یه رودخونه اینجا هستش به اسم رود کورا. یعنی همین رودخونه. این رودخونه اسمش هم رود کوروش اونجا هست. گفتیم این کورس، کوروش قبلش کورس و کورا. مثل رود کوار که محل زادگاه خودش در جنوب قاری کشور. خب اون راه با چی ساخت؟ اون صد دو. ببینید اول کجا ساخت؟ در دار دار وسط این کوه این راه است این و کوه بوده نمی‌سازم بعد یه چیزی درست می‌کردی آب از زیرش رد بشه سیل نابودش نکنه اونا هم نتونن با آتیش زدن و خراب کردن ازش رد بشن چهار نفر هم این بالا میذشتی دیگه میدونی که یه نفر تو کوهستان یه تیرانداز یه لشکر اسیر میکنه خب بمیسای از هم همینجا بزنیم لایف خودم ببینیم نکنه هنوز بعدها این منطقه ارمنی شدن مسیحی شدن اما این سازه ها منطقه عجیب کوه های سر به فلک کشیدهی داره ببینید هنوز حفظ شده خب اینم که تنگ داریال همون در آلانان. خب گفتیم این صد رو با چی ساخت؟ باریکالله و یک سرچ ساده من انجام دادم زده شدم دیدم ما اونجا یک منطقه داریم اسم درمبون درمبون بون بن یعنی ریشه خب این یعنی از ریشه زمین چی در میاد؟ درم یعنی محکم فکر کنم یک معنی شو دقیقا چسبیده به هم معدن آهن و آهن مص و معدن مص چناره در منطقه که امروز بهش میگن داشکسن اسم امروز ترکیش شده معدن داشکسن ببینید چقدر نزدیکه از همونجا ببینید شما زمان قدیم کامیون و هواپیما و نمیدونم چیزاییست برداشته که اصلا معدن داره انجام میشه این هم معدن مثل درمون نگاه کنید خیلی کم ولی من اصلا فاصله نمیرد ببینید همین هم داره برداشت میشه و وقتی من نگاه کمدم به عصر مفرق برمیگرده برداشت ازش یعنی همونجا باز آثاری پیدا کردن که انسان‌ها از اونجا برداشت فلز انجام میداده ببینید شما نمیتونید بلند شوید از 500 کیلومتر اون طرف مصر برداری بیاری که با همون ابزاری که دم دستت بوده دو یه 100 گرمش درست کنیم گفتم خب آتیش میزنم گفت آقا خب فلز استفاده کنیم فلز چی ده گفت آقا خب اینجا معدن آهن گفت آقا خب فلز نرمی که بشه به این آهنا اگه مس نبود فلز نرم دیگه ای بود شاید از اون استفاده میکردن متوجه چی میگم گفته با مدنه مثل هم داری گفته همینجا درست کنیم تا من هستم اینجا دستورشو میدم پولشام میدم سربازشام میدم بسازید که دیگه شرر این براد اومد قرب و مغرب شمس درست کرد و شرق و مطلع شمس محل طوله خود. میگه بر مردمی رسید که جز خرچه چه بالا سرشون نبود یعنی اینا خانه نداشتن بعد ما اینا رو بیاریم رها کنیم بریم مثلا گانزتکسی ارمنی تاریخ نگار کشیش ارمنی همزمان با نظام انجام بوده قبل از حمله مغلا به شهر گنجه میگه شهر گنجه داره انبوه جمعیت فارسی زبانان و اقلیتی از مسیحیان خیلی جالب یعنی شهر گنجه اسمش همه. چرا؟ گنج چرا؟ مکسی جالب دقیقا شهر گنج معدن مس و طلا داره و بسیار هم به همون منطقه‌ای که نشون دادم نزدیکه یعنی یکی از همین دو تا معدن همونجا یعنی پر آهن و مس دم فلزدمی قران این چجوری شار کرد یک فرد عربی 1400 سال پیش تو شبه جزیره عربستان یهودیی شروع میکنه چیزی رو میگه از چشمه های گل اونجا از معدن مس آهن اونجا از ش... چین مرض چین اون طرف تو شرق خبر بده بعد این عبارات انقدر دقیق استفاده بشه که ما باز برداشت های مهدوی ازش کردیم اون حقیقه زلغنه خوشی دنیایی من گفتم از بودن بحثا نمی‌شم نمیشم جزء جو برای همینه میگه یو تونی فتو به صورت ممست میگه یه دونه صورت شبیشو پیار نمی‌تونی بگی یه در آن واسه 60 آدمی بده فیزیکیش درست باشه چیش درست باشه تاریخیش درست باشه مذهبیش درست باشه بعد آهنمسه باز چه استفاده کرده؟ آهن فلز حضرت داوود تو قرآن میگه آهن رو با دستش نرم کردیم و مثل سول... فلز حضرت سلیمان دو پیامبری که در بین یهودیان حکومت تشکیل دادن و میخواد به یه قصه زلغرن قصه تشکیل حکومت ببین چجوری اینا رو به چینی کنار هم نیگه یعنی واقعا فقط از خدا برمیاد کار آدم نیستش ما قاره... انسان نمیتره باشه فوق کلام مخلوقین حتما کلام خالقه بله عرض میکنم کنم تو فصل ایجدهش میگه جلال الدین محمد خارعزشا سپاهیان خود را از میان ایرانیان تا چیکان و تئورکان گردآورد گرد آورد که اینا از هم چی بودن متفاوت ذکر کرد همدالله مصطفی تا شهر برجسته ایران اینجوری میگه بهتر و سازنده تر خوشی آب و هوا چند شهر است اندر ایران مرتفعتر از همه در خراسان معرو در روم باشد و گنجه پرگنج در آران سفاهان در عراق شمال روز عرس هیچ وقت اسمش آزربایجان نبوده اسمش چی بوده؟ آران شروان روزی که اینا اسم اینجا داشته می تو باید که نقشه برای جنوب دارد. اونجا آرانه سفاهان یعنی اسفاهان عراق یعنی کجا؟ عراق اون دشت درا کو میگفتن الحمدلله مصطفی قرن هفته قرن هفته تو این قنا قرنه... چیز اینا از سال پیش خب یعنی کاملا یه اسلام اومده بود و ترک ها مسلط شده بودن و خیلی یعنی زمان بنو العباس نه آروم آروم مسلط شد حالا جالب و خوبه چیزایی که باتون علم زبان شناسی بگم که ببینیم چقدر اونجا ریشه داریم به آتش بهشون میگن چی انگلیسی ولکان ولکان یعنی چی؟ کان در زبان فارسی، کانی، معدن زرکان معدن زر تلا زرقان ورزقان اینا رو ندارید؟ تو آزربایجان داری تو شیراز هم زرقان دارید جایدیش رو من خبر ندارید خرقان خرقان یعنی معدن بزرگ، چشمه بزرگ. خرگوش، خرچنگ، خرگاه. آره خر چیز فوش نیست. من بزرگم ازمون بزرگ. خرپول، خرخون. <تصفح> ول عربا و نمیتون تلفظ کنن. ما و میگیم اونا ف میشنن. لبتون نباد بن بخوره موقع تلفظ و که درست بشنن. بعد میگه و نماز ما رو اینا میگن غلط اینو میخونن. لم يلد ولم يولد عربا دبليو دارن وی ندارن ورد ویکتوری نه نه دو ما دوتا انگیزه دو دارن درسته ما هم و میگیم ویو میگیم دبليو رو ما نداری موس فارسی شما اینا حت بگی خیلی باحال یارو دیونه است و به و نزدیکتر تا ف اون اینجوری میشنوه مثل اینکه مثلا ما نمیدونم مثلا این پاکستانی ها دو تا ب دارن این دو تا ب دارن. چطور ب دیگه چیه؟ یه ب میگن یه ب. اینا وا فرق داره. دو تا ر دارن. من باهاشون صحبت کردم مثلا گفت نه اینه درست سر ناراحت میشید. یه معنی دیگه میده. <laughs> حالا اینا خوان چینی ها که اصلا سرسام میگه. چینیا صوت توشون مهمه. یعنی ما چهار تا معنی داره. ما یه معنی داره، ما یه معنی داره، ما میره پایین یه منزه مادر، کنف، اسب ضربه زدن. سرما بخوری اونجا زبانو تغییر می کنه <تصفيق> اونجا به ننه یاری تو دیگه بیدیگه عصمی <تصفيق> مصمی چیم و و ف می ول میشه فول. او یونانی گرفته به زه تبدیل شده فلس فلس ولکان یعنی مدن فلس هنوز تو زبان زبانه هندورپایدار استفاده میشه یعنی اعراب هم فلز از ما گفت. چون اصلا ما اولین امپراتوری بودیم کار با آهن و صنعت و این چیزا به صورت ویژه امپراتوری امپراتوریات اتفاق افت تو بعد چرخ بر اعراب ها درست بکنی تو باید نمیدونم چیکار کنی راه شاهی درست کردن آوردن خدمت شما ارذ بکنم چاپارخونه گذاشتن اخبار بری سری بیاد ها امنیتو برقرار کردن این خیلی کار بزرگی بوده که خدا ازش داره تو قرآن یاد میکنه به خوبی هم یاد میکنه قلنا یا زلغرنه ما بهش گفتیم ای زلغرنه یعنی ما باش رابط داشتیم یه نفر کنارش بود حرف ما رو میشنید بهش میگفت پیانبر خدا کنارش بود خب پند میگن چرا بس یهودی رو برد برای اینکه باید میبرد برای اینکه پیغمبر داشتن بعد از او تا 500 سال بعد از کوروش هم بین یهودیا پیغمبر اومده تا 500 سال بعدش یه آخرشون حضرت عیسیعه یکی از آخریشون واسه بگن بعد از عیسیان پیغمبر دیگه درسته این روز خب خدا امید داشت نه ما مسلمان دیگه سر راه امام فرستادینو حضرت علی و ترور کردن شاهدرسان دیگه نموده ما میفرستیم اینقدر اینا احمقون است و همین حد احمقون است متوجه شدید برایشون گردن گفت پوشید به شهر خودتون برید دمو جای عبادتتون برید مگه نمیگید مال اونجایی برید چون اون مردمی که اونجا بودن بعد حضرت عیسی اومد بخش قابل توجهی از یهودی‌ها چی شدن مسیحی شدن ایمان آوردن به حضرت عیسی برای همین گفتن اینو بعد ببریم یه بلای سرش بگیریم همه دارن بدین این در میان چرا منتظرش بودن بعد پیامبر گرامی اسلام اکثریتشون مسلمان شد یعنی یهودیایی که مسیحی شده حالا چی شدن مسلمان شنب. و وگه آقا سوریه رو شهرهای بزرگ و مهم مسیحیت بوده این تردیدی نیست همه میدونیم نزدیک اخبارش بله تا دلتون به از اینها هست مثلا قلعه داریو در الان مرز ترکیه است. اونجا رفت شهر ساخته برای اینکه رو با رومی ها میجنگیدن اونجا جو. اسامی مونده کسی نیمید مستندی بسازه بابا پادشاهه رومی رو برداشتن آوردن اینجا ولی ایرانوست وادار به تعظیمش کردن جلوی پادشاه ایرانی یه ای صدای رهبر مملکت در من دیگه بابا ببرین رو به دانش آموزانشون نشون بدید که بفهمن قرب در مقابل ما زانو زده یه نقلی برای من نقل میکرد. میکد رفته بودیم یونان یه نقطهی بردن یا بیابون خالی گفتن اینجا همون است که صفاهیان ایرانی آمدن اینجا از ما شکست کردن یه مده های تاریخی رو با یک فضای خالی اثبات میکنن. خب اینجا مجسمه والریان هست امپراتور روم نزدیکی کازرون که زانو زده در مقابل پادشاه ایران خیاله خوب، اینجا رو برید نشون بدید این با اون <تصفيق> وقتی حوییت رو از مردم گرفتی مردم آذربایجان، ایرانی زبانشان ترکی شده از خلاص تمام شعرای آذربایجانی اینجوری حرف میزدند. مال خاقان بوده مال شروان بوده مال گنجه بوده اینجوری حرف میزده خیلی داریم سنایی گفته بعد خاقانی شروانی دوباره نظامی نظامی فردوسی هم خیلی گفته باگیزنیم همه اینا برگشت تا یه فردی آمد به اسم آر... مینوس وامبری یک یهودی فقیر مجارستانی این انگلیس انتخابش کرد گفت اگر جنوب روسیه اگر جنوب روسیه از نظر فرهنگی یک گسل به وجود نیاد روسها میرن هند ما رو میگیرن ما نباید این اتفاقه این شد که این آقای وامبری معرمور شد برای اینها خوبیت واقعا بود. واقعا نخبه بود یه آدمی بوده به دنیایات به پاش میلنگیده فلج بوده اما تو یادگیری زبان خیلی استعداد داشته میگن نزدیک مثلا شد مثلا 20 تا زبان بلد بود رفت عثمانی به ایران چند بار سفر کرده تا مرز چین رفته تا مثلا فرهنگ لغات جغتهایی رو این آدم نوشته ترکی به آلمانی نوشته نمیدونم چه آرام آرام آمدن این برنامه الان نیست برنامه این 1860 این کار کرده 1860 میلاده بین چند سال میشه دیگه خب اون زمان این اینا اومدن این کار کرد و اون تیکهی که آتا ترک از رضاخان گرفت افسوسون قرسور رو گرفت و منطقه نخجوان رو چسبونن به ترکیه فقط مونده این زنگ حالا شما میگی زنگزور زنگیر کار نظامی شده میفهمیم صد و خورده ای سال بر اونجا نقشه دارن اینا باید روسیه را اون موقع انگیزشون بود به هند نرسه. الان انگیزه دیگه ای دارن میگن بین روس ها ایرانی ها نباید رابطه باشه باید اینو کات کنیم و این فکر رو فرهنگو بیاریم بالا کیا دارن کمکشون کنن انگلیس اسرائیل دوباره همون و دوباره برگشتی هایی میدی از جوجو ماجو چیه همینان امیر سمیستان که دوباره دارن دست میزنن روی اونها میخوان یه کشور توران نامی مثلا درست بکنن از غذابستان مرز چین تا ترکیه که بین روسیه و ایران این فاصله بیفته این ستاق کشور و هم نزدیک نشن ایران روسیه چین چین هم که توضیح دادم قبل مثلا افغانستان چی کار کردن خیلی عجیبه مستقیم با دفتر نخست وزیری وقت انگلیس کار می‌کرده گزارش می برده بعد اونجا بارها مورد تشویق قرار گرفته آقا کار بزرگی که تو انجام دادی کسی نمی یهودی یهودیه مجار جالب بعدش نفر بعدی یک نویسنده فرانسوی به اسم لون کوهن میاد این کار رو در دست باز یهودی کوهن ها می کاهن. کوهن ها یهودی بعد اون اومد شروع کردیم این رو گسترش دادن و دا امروز این چیزی که حالا شما دارید می بینیدینام ساختن و پرداختن و اینو دارن دامن میزنن خب خلاصه منظور چیه اینکه اگر ما از غذا ذری ها باید اینجا پیشکام بشن این آقا ما زمان ترکی روستنیم بله زبان ارتباط با کلی آدمه. زبان قشنگ هستن روزر فقط ترکی روش میشونیم <تصح> خب حال کنید اون اگلم سوز لرینده خود فارسا هم گوش میکنن گریم میکنن شاید هم اصلاً متوجه نمیشن یه جایشان چی میه سوز داره این زبان هر زبانی یه ویژگی خاص خودشه داره اصلا به معنی خوب و بد بودن نیست بخواید من الان میتونم ده سال راجع به زبان ترکی بانجا حرف بزنم که هیچ پان ترکی به گرد پای این مطالب نرسه خب منطقه هر ارزمینه که بله زبان ترکی ترس بشه حتما این کار باید بکنیم اما برای چی برای گسترهشون تمدن انسانی و فطری خداونواد باید زبان ارتباط داشته باشی باشه اما این به این معنی نیستش که دیگه اجازه بدی بچه های تو رو بیان فریب بدن، بردن من برن مثلا بردن, بردن نشون بدن توی فلان بازیو تو اینا کجا بچه خط تو می‌خواد تاش این چی داره اینا پیگیری می... کجا هم شکل می‌گیره کجا پیگیری میشه تو واسه جای فرهنگیشه ما گفتم اول مثلا نظامیه بعد امنیتی میشه بعد سیاسی میشه بعد اجتماعی میشه بعد فرهنگی میشه ما این بخششو فقط میفهم. اینجا از شما کنید. باشید، چه جوری زدن؟ اول فرهنگشتن شدن. بعد تنش سیاسی شد. اونا میگفتن ببین از یک نژادن همشون. عین همین اتفاق ما. زبانشون هم تا یکی. یکیه. گفتن شما نژادتون فرق میکنه. این روسا فلان 15000 تا روس کشتن داره. بوکران چی شد؟ آخر روسا هم میکن. دیگه حمله که کردن؟ یه جوری از هم کشتن. دیگه فکر کن الان دیگه چه قصه ها خواهن ساخت برای صد سال که نست شد دیگه خون ریخته شد دیگه خون ریخته شد مثلا شما تحساس بودن ها رو شما میبینید مثلا چه میدونم کوچکترین حرفی بعض در مورد بعضی از قومیت ها زد میشه که نباید قو... توحید نباید هیچ قومیتی بشه خب آذربایجان از توی ترک های ما الان ترک به منی همین آزربایجان خودم دارم میگم بابا چه بزرگانه چه مفاخر اومد علامه طبع واقعا شهر ارفان بوده شهر و از غذا بدونید کشوری که وقتی مملکتی حکومتی کشوری مورد قارت و تاراژ داره قرار میگیره از نظر هم بنیه بدنی هم از نظر فکری بهترین ها شد اون مرز میذاره میگه اینا باید حفاظت کنن از اون مرز عقیدتی و مرز فیزیکی سر سخت ترین رو بودند اونجا پرویش گرفتن این آغاز ما اینجوری، اهمیت آغاز واجد. سر ایران است. این هویت ایران، مغز ایرانیم. این درسته؟ جو بسیار مهمه. الان همون نقشی که چند سال خیلی عجیبه که می‌دونم توی ازم جنبگرمو جالبه. دوباره الان فعال شده، می‌خوان مرز زنگیز رو بگیرن. حالا مرز زنگیزشم اصلا بگیم 20 کیلومتر 30 کیلومتر هم گرفتند. یا اصلا تو موقع نگه داشتی؟ مسئله نیست. مسئله, مسئله اون هموطن جمهوری آذربایجانی ماست، هموطن ماسون. او <تصفيق> ایرانیه که امروز منو تو رو دشمن میتونه. و فکر میکنه نسبش به مغولا میرسه. محل اختلافه. آموزگار بهش میگه، و... خب. حالا ببین نگاه کنید. حرف زیاده، اینا نمیشه خیلی قطعیت داد. مینی چرا اصلا الان اگه تو بخواید نشطه تاریخی رو مبنی چاکه مطون دینی رو بخوای مبنی قرار بدهیم حضرت داود چجور آدمی خدا به دادش میسه تو تورات میگن باز زن شوهردار زناکه توراد تمینا هست حضرت سلیمان بوتینمون نپرستیده باشه تورات میگه یه قرار میده آقا قبر چه سوال؟ امیر قبر متحس زمان امام صادقی زمان تو زمانم اصلا مخفی بود بارگاه امیرالمومنین فرض کنید برای اینکه میرفتن تعرض میکردن فرض بفرمایید اموی ها میفتن که فرض بفرمایید نمیشد مخفی میمون درسته همین الان به غیر از یه یعنی نجف میذستی جای دیگه ای ما داریم که قبر معروف معروفه نه مزار شریف تو افغانستان همین امروز احتمالاً بلند میشد میرفتیم اونجا حضرت زینب سلام الله علیه. یک قبر دقیقا در مصره خو خب. حالا فرس ما سوریه نبود، کجور از از که میدونید، اصلا میگن اون مصر قوی تره حالا میگن یه عالمی شروع کرد، داشت تحقیق میکرد که کدام اینکی درسته، شب از از, از این تو خواب دید خب. حالا دو جا رو زیرات میکنه، شما مشکلی داری، گوه خب. نخیل، بلند شد، همهش باره کرد خب، راقی گرفتی چیشو؟ پسی من بعضی از بوستان یه جوری میرن تو تاریخ متبه خشخاش میذارن انقلاب ما این فجار نور بودیم مال کی؟ امام خمینی تا یک جستند برای من بیارین امام جایی گفته باشی نوشته باشه. بستن به ما. الان رسانه بنیاد حفظ و نشت آثار امام سیده سن آقای خمینی حرم همه چیز سایت اینترنت، الان میشه اما بدیهیاته وقتی شما دارید میبینید تو تاریخ این سفرها بوده این فرد. بعد مثلا کسی مثل کروش یونانی ها ازش خوب گفتن دشمن ازش خوب گفته صحبت الان نیست عزیزم. از صحبت دو هزار بیش بشر کاغذ نمیتونسته نگه داره از غذا بنده معتقدم کورش توسط زرتوشتی ها سانسور شد به خاطر اینکه از مذهب زرتشتی درآمد و حضرت دانیان رو به پذیرفت برامون این مایه ننگی بود سوال کلیدی زرتشتیا خاک آلاینده میدونن جنازه رو میذارن روی استودان بالا تپه طوری میذارن پرنده ها میان میکنن میخورن پرنده اون پرنده ای هم که برمیدارین استخونشو میخوره نماد آخرت و معاد و تقدس شده اسمش چیه؟ هما. چه؟ هما که استخون میخوره دیگه برای چی بعد اگر اینه من سوال دارم پس چرا قبر کوروش پاسارگات برای چی یا ایشون دیگه زرتشتی نبوده که دفن میکردن؟ خب یا بگیم قبرشون چون نیست الکی اینجا گفته؟ ببین؟ اینا عرض میکنم میان رشته مسائل جامع الاطراف باید از همه جهت بررسی بشه خب و؟ اسم رودخونه تخونه مونده اسم جهان مونده اسم شهر مونده یک جریانی میخواستیشون ایشون حذف کنه و یک کوروش دیگری رو به شما معرفی کنم کوروشی که یهود اگه میتونست کسی بر خود حبس بکنه دانیال و یه پیغمبر سالم تو تورا به من نشون بگم بهتر یه پیغمبر سالم نده بله اون کوروشی که نقل میکنه یه کوروش دیگه است و اون واقعیت چه فاصله داره هم بلایی که سر پیغمبر خودش بود. سر حضرت عیسی هم خواست رو صلیب دیگه کجا میشه؟ را دور میرید. مثلا 500 سال بعد از کوروش. دیگه بدیهیاته دیگه بهلها کارا نمیشه زلقرنه. تو این سفر به شرق، سفر به غرب نمیدونم چی، آه همه اسمش هست و استفاده میشه. در چیزا میگن ایتالیا میگن چیرو. ها خب. همین دون اسم داریو اسم دارن میذارن همین الانو تعداد زیادی آدم اسم گذاشته شده. تو روسیه خوب همین هم اونو ارش فارسی ما نمیگم کور پسر امام صادق علیه السلام میگه کانقلامون پسری بود پسر یعنی غلام يعني داریم تو قرانم میگه میگه به او و بشر ناب غلام اشاره دادیم به پسری بهش میدیم. میگه پسر بود اون خود. یعنی چی پسر خب بعد میگه عجب چقدر دقیقه یه جا دیگه که او بنده خدا بود ابن زحاک این دیگه شاهکار خدام پدر بزرگش کی بود؟ اجیده ها که برای میشه زحاک این اصلا اجاز این امام رو نشون میده. با همان منطقی که من عینبر میرم با منطق و عقلانه رفتم رسستم به تشایع. با هم منطقی گشتم من آدم خوبی میدونمش و این کسی که توهین میکنن من فکر میکنم خود احتیاج کنم این چیزی نیست انقدر راحت یعنی درشون در میگن. اگر کورش سُلقرن باشد که به از نظر بنده هست قریبه به یقین این خدا در قرآن چطور باهوش صحبت کرده؟ بله زرتشت که کله گی داشتن یوتیوب با، اونجا نداشتن. صحبت 2500 سال پیشه. گذشته خیلی را دور نرم. داعشیا نگاه کن. به اسم اسلام نیست. نه 2500 رو بابا وحشونه آدم می‌خوردن. یکی بلند شده گفتم دیگه نخورید. نه این آمد آنجا، مثلا گفت همه خدا رو راحت به پرستیدونا. خودون کورشون رو گفت. بود؟ اونجا بودی؟ یه سنگ نوشته پیدا کردی اینو کوروش نوشته به داریوش مثلا بعدش اونش نوشته همینا از امام خاطره نقل میکنه یه <تصفح> بابا نبود میشه از خاطرات اونچنا نقل میکنه ابوه راعره چقدر از پیغمبر خاطره نقل کرد 2500 نه 1400 سال میشه انقدر که صدای همسر پیغمبر جناب عایشه در میگه والله ما سابین که تو داری میگی ما چرا نشدیم ما با پیغمبر تنها بودیم تو با پیغمبر تنها نبودید توهین چیه به همسر پیغمبر آوره منابع مستند اهل سنت و برای تو مشغول عشق بود بودا پیغمبر همینجوری جواب داد اینقدر برود اینا رو نمی‌بینید تاریخو چجوری بررسی می‌کنی حالت آره خوبه اصلی طن که ایرانی ها هویت نداشتن تو به ایرانی می‌نیستی کدوم ایران تورکی میگه من بعد جداشم کرده بگه جداشم عربت بگه جداشم توکمان دیگه جداشم بلوچت بگه جداشم, جداشم،, بلو جد جداشم. ایرانش کدوم فرهنگ فرهنگ چی شاعراتو میگی ببین مولوی رو شعراشو دیدید دیگه الان اونها دارم مشخص میسازم خب ابو علی سینا رو دارم میدوزم مفا... فرهنگ آدم میشه چی تمدن آدم میشه چی میشه مفاخرش ابو علی سینا دارن کش میرن مولوی دارن کش میرن همه دارن کش میرن غزاهاته نون لواش و ارمنی رفتن ثبت کردن سال چهاززی اسرائلی رو رفتن صف کردند ورزش شده چوگانات جمررا زبطدن روزنن ساز موسیقیهدار مین ثبت میکنن با دیایی امارات رفتن ثبت کرد چی ازت میمونه؟ خب هر چیزی رو ببین ببخشید وقتی که به دستشوی رحم تو ثبت کردن خب میخواد بگین چیزی از خودشون؟ اشتشته چ خ من کسی هم نداری من موزی دانشگاه داشتم سخند که گفتم بابا هیچگونه نمیتونید حصف کنید من که زبانتون رو تغییر بدید چرا؟ گفتم بدیهی این مسئله این رو باشید؟ من این میذارم تا از آن ببینم جالبه ببینید چه عراجیفی گفتون ه... تی ایچ تلفظ میکردن سه و تی ایچ سه عربا سه سه نقطه رو اینجوری تلفظ میکنن سه برای همین هم سه خونده شده هم ه مثل هند؟ سند مثل هفت sabt فهم که پ پیل پیلفیل خیلی سبت چنیدی اما هفته درست شد حالا بریم رو ماه های آقایون اروپایی سبت ماه هفتم الان میگه ها ماه نهمی که بله چون اون موقع عاقل بودن از اول فروردین ماه شروع است ماه حساب میکردن موقعی. به خاطر قصه ازاتیسا که اومدن جعل کردن که تو دو ماه بهش اضافه شد و بهمن تا اضافه شد. دو ماه اضافه شده ما دس میشه چی؟ سوهه ده دس اندر ماه ما من خودم برای اینکه میلادی و شمسی نکنم اینجوری کنم اکتبر هشت اکت. اکت پائوس، اوکتاپوس. و شما ماه هاتونو درید ماه نهم. ماهاتون روز شماریاتون اصلا فرهنگ اصلا مجیک بزرگ مگاه همین هم لفظ مغه خب دشت مغه کجاست؟ آزرواجه چی بری بگی به اینا مجیک یعنی دانش مروض مغه ها عدبیات بروکراسی و سلطنت اون موقع سلطنت بروکراسی الان بوده دموکراسی که نبوده که به این معنی که الان هست خب ای کاری یونانی ها میکننم از هر بازی رو دو یور علا حضرت مجستیک با شکوه اصلا شکوه با ایرانی ها تعریب شده حتی در عربی گفتم شاه از شهوه یعنی چیزی که لذت بخش از لفظ شاه گرفته شده هر چیزی که شاهیه مثلا خیلی خوب مثل پلوی شاهی راه شاهی بزرگ و با شکوه و با عظمت یاش شاه شهیه شح... به واو اعلاش شه شهوه عبادت دینداری نجوز اولین دینداران بگم مزگت یعنی عبادتگاه بر باب مفعل بردن عربا فکر کردن مفعل ازش سجده بیرون کشدن همین الان عربا میگه مسجد خب دین کلمه دین رو من توی تویتر هم به تویتر مفصل باشدن دین کلمه فارسی خب وقتی دین حکومت بروکراسی سلطنت و چه گذاشتی بقیه مردم به مانه چی آنها که بکار فرهنگی در درجه به مقصد خودم من دنبال مقصر کسی دیگه نمیگه. خب این بچه چه کد... اینا... چرا شما بر چی علماله اگر نا یه جای دیگه بهت میگفتم میومد اینجا بیکار ای بودی خدا پدرتو بیا مرزه میای اینجا میگی این حرف جدید داره میزنه بعد چی علنی داره میزنه دوربین داره زد میکنه این همه آدم نشستن وسط حرف من داره سؤال میپرسی شما خب این یعنی چی که صبح حرف دیگه بزنه مردم احمق که نیستن مردم عقل دارن میشینم قضاوت میکنم یعنی هر حرف درست بود سند ارائه کردن فرم. بعضی از اینا رو من جوابشون رو نمیدم فکر نکنید از نتوانستن نیست میدونم دو قطبی ساخته میشه به صلاح نیست الان میدونم مثلا طرف بچه خوب انقلابی اما اشتباه داره میکنه الان یه دو قطبی داره میشه خلاف بود. اشتباهه اون بله یک زمانی ساهیونیستا حکامنشونو بزرگ میکنه ببین چرا روش اسلام بزن میگن شما گذشته این بود اسلام واسه شما عقب افتاد بابا یارو پاره دیم شیفت داد. یعنی چی یعنی عوض کرده امروز میگه هیچ هویتی براش نذار بمونه مادامی که او تو فکرش میگه ما در زمان اون هاهوانشان از مدیترانه تا مرز چین بر ما بود این تو مخ این بچه میشه میگه تو الان نباشه این میره ذهنش اره اون موقع آرش کمانگیر قصدش تو برای چی ساختی؟ برای که امروز بتونه موشک بزنیم. این هویت سازی میکنه این در شما در بچه شما تو ذهنتون میکاره چرا از توی هند کاره هویتی در نمیاد هیچ وقت هیچ کاری تو دنیا نبوده یک میلیارد و خورده جمعیت بمب اتم چارومین پنجمین اقتصاد دنیا اثری ندارن تو معادلات جهانی چرا؟ چون فکر تمدنی ندارن مردمشون الان مسئله اصلی تو هند مطفونه کردن تو خیابونه مودی سراحتن آمد تو تلویزیون خواهش کرد از مردم گفت تو به دهن تو خیابون ما بتونیم توریست جذب بکنیم اموز وعده های انتخاباتشون ساخته دستشویی بخواهی که تو پاتری هند و ما ادراکم و هند. به خدا که بیلدونانت میگه این مردم دنیا دو دستانا که هند دیدن وانگه که هند ندیدن. یه سری جینیست داره. لوسوس اعتقاد به لباسه. مردوش. لخت مادر ازت. اما چرا تمام اینا لباسشو عل نکرده؟ اصلا پوشش ام اگه تو اینجوری برای این دختر ما حرف می‌زاری پسر رو تو این دختر پسر رو نگی من خیلی خوبه. برای پسر علم که بابا اصلا پوشش فرق انسان با حیوان بوده از اما انسان نخوز که یه لباس علنگی تنمون کنیم امروز فلانگامو لباس تنشونه این یعنی چی یعنی من فرق ندارم اون حیوان تو قرآن به آدم و حوا میگه خطا کردید ترک اولا کردید لباساشونو بگیرید اهل کسا میخواد پنج تا رو معرفکا میگه به زیر پوشش کسوه در قرآن پنج بار تکرار امام حسین هیروبیر، اون هیروبیر تو اون هیروبیر تو اون گیروداد بچه علی یکتا تا علی اصغرش کشتن تیکه تیکه کردن داره به میدان میره داره لباس عوض میکنه میگه لباس بایدن لباس پاره میکنه میگه من تنم برهنه رو زمین نمونه بعد این کسان هم بایدن میگه چرا او به پوشش حمله میکنه او جای گرانیگاه رو پیدا کرده او تا کی تو به چه زبانی با این مر دبیدون نوع همین حاله تي C نماز بخوره یه 10 بگید نمازت؟ می کنم جوابش بستقیق باشه بگوی friendgelization مثکر چرت میگن دیگه هندی ها زبانشون دراویدیه. همون اول خوب گفتم که زبان درآیددی ملو منطقه است یک شاخه مجزای زبانی هیچ رفتی به هنندروپ نداره همونطور که ترکی هیچ رفتی به درروپی نداره ترکی آلتایی خب اینا شاخه زبان ترکی مغلی آلتایی یه شاخن منو مجبور بود کرد ببین یه سری زبانها اشتقاقی اشتقاقیاً عالب دارن و میریزی اون تو هشتاد تا وزنه هشتاد تا وزنه اینا اون تو فائل کاتب خادم تو خدمه رو میبری اون تو درست شد؟ آه. این زبان اشتقاقی زبان ترکی التصاقیه یه چیزی بهش میچسبه زبان جالبیه برای همین که دلیل گسترشش همین سادگیشه زبان ترکی در لحن سخته در لحن سخته اما در قواعد ساده است ببین شما تو فارسی برای اینکه بتونی یه فعلی رو صرف کنی دو تا بنواد حفظ کنی یه دونه بن مزاره رو فعل امر میکنی بهش عمر یکی هم بنه مازی هم رو باید حفظ کنی هم رفت دو تا تو ترکی همونه گت گت میزار جتتی یدی ها این اون یه دونه بن حفظ زبان فارسی هم التساقه یعنی به آخرش اضافه میشه هم پیشوندیه هم به اول اضافه برای همین هیچ زبانی در دنیا به اندوز فارسی چلمه نمیتونه بسازه خیلی میتونه باجه بسازه باشه شما هم به بون فیل رو یا الف زمان شون اسم آ اسم ماشه یه ببذار اولش برو عجام برو یا متوفیده شدی؟ خب زبانی الان تنها زبان عملا به یونانی بذاری کنا چون خیلی مهم خب اونا خیلی آسیب گرفته تنها زبان کلاسی که دنیا سینا تکلوم میشه داره استفاده میشه این همه بهش حمله زبانی صورت گرفته انقدر خوشگل میگره حزمش میکنه و به کار میبرش که آدم کف و خون قاطی میکنه <تصفيق> من حق رو میگم از من انتظار نداشته بهش مثلاً چون مثلا ترک هم از فارسه بعد بگم چون فارس هم از ترکیه نه تو من این چیز نبینی خب سعیم اون این بوده اون که این زبان خواص حروف درش رعایت شده در فارسی کمتر زبانی ما تو دنیا داریم اینجوری این نشان قدمت یه زبانه و تکامل یک زبانه من درم مثلا چرتو بیرد میکنیم فارسی نبیدم بیست همین لحجه عربی چرتو بیرد کجاتون در بیرد این هرگورین هند و اروپاییه این سامیه اون آلتایی مطالعات ژنتیکی دار نشمده این زبانمون همینجاست بابا دور و کوهمون دشتمون دره‌مون شهرمون همین چی همینا استفاده میکنه از اینجا جای دیگه رفته از جای دیگه کمتر اینجا آمده ما الان کلی تو زبانمون عربی داریم استفاده میکنیم به زبان فارسی آسی می‌زاده روونترش کرده کلی مفاهیم عرفانی و الهی رو میتونیم باز... کلمات عربی که وام گرفتیم چیکار کردیم؟ استفاده کنم این که خواص و حروف یعنی چی؟ مثال براتون بزنم این خودش یه دنیاست من برای این شعرها که دارم برای میگم مثلا حرف شین ذاتن یک ویژگی های دارد یعنی شما مثلا حرف شین حرف آبه نوشیدن فارسی شرب عربی اشماخ ترکی شت ابری میبینی؟ چشمه تشنه آبشار با شاید دیگه هم داریم که نمیشون حتی روزی که شما شیلنگ و باشه رو هم میخوایید تخاب تو آب داشته باشه این زودتر وایرال میشه بین مردم یعنی آیا آب سده شیعه میده شورشور آب آیاز سده شیعه میده نه این باش نشه یا حرف کاف حرف بدیه <تصفح> تو همه زبان و زمان. خب ما تو کمتر تر زبان این رو ببین شما وقتی فردوسی چرا مانا شده چرا مانده شده برای اینکه اینجوری شعر میگفت. ما نه کم ماش سر رو نداشتیم. این ویژه یکی از دلایلش نه ببین شما نکرد صدا خرج خره چه کمانو میشنابی خودشو این چیکار کرد شاه کارو. کمان چاچ یه منطقه‌ای تو افغانستان ظاهرا افغانستان کنونی باشه از اونجا کمان میبشه. اون موقع کش نبوده چوبه بوده که اینو پرت می‌کرده این چوبه باید خم میشده وقتی دوباره صاف میشده اینو پرت میکرد میگه بر اون راست خم کرد و چپ کرد راست خروش از خم چرخ چاچی به خواست ببین خرچ خرچ رو میشنه این عربی هم این ویژگی داره بعض از ها رو شما گوش میکنیم میگی این خشنه این زبان آلمانی ها بهت بگه دوست دارم میترسیم همون که گفتم ترکی زبان احساسات زبان روزه زبان گریه است زبان چیزا توش هست زبان فارسی واقعا شیرینه ما ببینیم من خیلی با خارجی و سرکله دادم ما فارسی حرف میزهیم فیلم کنیم شعر داریم میخونیم توییتش رو زدم دیگه اصلا ما خیلی از کلمات جملاتی که استفاده میکنیم آهنگینه وزن شعری داره خود رو متوجه نیستیم عادت کردیم میری مترو نوشته دسترسی از طریق پل برقی ممکن است بشنو این چون حکایت می کند. از طریق پل برقی ممکن است <تصفيق> تو خیابون رد میشی نوشته زندان رجایی شهر کیش شعر زد زندان رجایی شهر مفعول و مفاقی اخبار رو مرور میکنی نوشته رونمایی از لباس اول نساجی من تو آن دو ماوری ماری به ناچاری اگرچه باور من زاغاز دباس اول نساجی مفاولان فعلاتن ف. آقا میری استخ استخم دست دست دستارت بر نمیداره این وزنشه یه تابلو میبینی در قسمت کم امق شنا ممنوع است این کوزه چون من آشق زاری بوده است در قسمت کم امق شنا ممنوع است مصطفئ و مفعولن ف انقدر این زبان فارسی گوشنواز و خوشاhenge که شعر نگفتن توی سخت‌تر از شعر گفتنه هر چیزی که ما از دهنمون در بیاد یهو خود به خود روی وزنی میشینه مگر نه شما هم مثالی بگویید جهانا چه بد مه رو بد بدخو جهانی شما برید یه دو جا رو برید ببینید به خدا اصلا ما چین رفته می‌رید می خب اصلا این دا دادایی از ده بود و شیارون گفتم چی, چی میگه کوریی اصلا بعد اینا برای اون کوریی امروز داره برای تینیجر منو شما برای دختر پستر ما داره فرنگ سازی سو چی اون مثلا این فیلم ها... کلیپر رو او چرت گفتن توجه پانا پان ها کلا <تصفح> میخواد پان فارس باشه پان کرد باشه پان تولک باشه کسی پان... اصلا پان قبول داره خره اینجا خورده ادبی صحبت میکنه این یه جنتیست امریکایی یهودی عشقنازی <تصویح> <تصویح> <تصویح> <تصویح> من رفتم دنبال اون تویت های نتانیا کلی مطلب که شر برگفته پیدا کردم گشتم یه چیزی که یه, یه یهودی علیه حرف بزنه ببین این سخت بود اینم آخرش یه بازی های در میاره ها بیمرز حداقل جواب نتانیا رو خوب بوده اینا آمده این کار جنیتیکی انجام دادن روی یهودی ها و, غیر و منطقه شامات اینا جنیتیکی اینا نشونده میگه رنگ سبز مثلا قرمز آفریقاییه سبز پوزی می داره بریم. من برم جلوتر تو دینه هزاران نفر سر تا سر این سیاره مطالعه کردیم اینا رو به کامپیوتر دادیم این نقشه رو برا... برای اینا داده حالا من برم جلوتر خب خب ببینید مثلا میگه عرب زبان ها اینجوری هم. به وضوح سبز و اون بالا قهوه‌ای تو چشمه درسته؟ خب بعد وقتی شما هرچی به سمت روسیه برید کاملی از بمیره آبی میاد خب یعنی اینا دیگه خیلی تفاوت دارن واقعا تو چهره ما اینو میبینیم دیگه 420 ملی نفر تو دنیا عربی صحبت می‌کنن بیا اینجوری مراکش اینجوریه می‌بینید زرد خیلی چه پررنگ عرب شدن می‌بینید عرب شدن سبز شما اینجا اصلا خیلی کم بله دیبلخه مسلمان بودن رفت اومدن ازدواج کردنم چیزی کلی سادات داریم درست شد این, این عرب شدن. این آفریقایی شدهش a little میاد چه میری این رنگ سبز بیشتر میشه کمتر میشه من رو توی تدوین فیلم می‌ذارم اصلش رو بذارین کاملش قشنگ ببینید حتی توضیحات منو بذارید شام این خیلی مهمه منطقه شامات این شاخصه سر شما داشته باشید ببینید این پایین البته چون زیر نویس کردین ببینید رنگ زردی هم می‌کنه اینا ها نه مهم سبز و قهوه، این سه تا این زرد لیمویی بهش میگنیم چیه و این قرمز خیلی کمن یعنی یه رگاهی از آفریقایی توشون طبیعیه دریا بینشونه یه کوچی که اون رد میکردن از اون سهرهای سینا میاندن چونی لزومی داشته رد کنه بیاد اونجا جا اون تو آفریقا رود نیلش هست ببینید برای چی باید جا به جا بشه این کوچ و مهاجرت فلسفهش خیلی مهمه. دلیلش مهمه. آسیایی خیلی مصر رفتن اکسوس آسیایی حمله کردن. رفتن مصر رو گرفتن مدت ها اونجا فرعون بودن خود ما از ایران رفتیم مصر رو گرفتیم دو بار رفتیم مصر رو گرفتیم و ما رفتیم حتی مصر یعنی چی برای شهر خودشون که نمیگن مصر که میگن چی ایجبت مصر همون آده سوهه مهر oh, yeah. آین ورزی میسرائیس مهر مال ایرانی بوده نکنه خرشید پرستمانه خرشید پرستمانه خودشون رو دارن اما هم بدونی همچنین لفظ جایی که مهر پرستی بوده اولین جاهایی بوده که این ها معبد ساختن و شروع کردن این از اون جاها شروع شد لفظ شهر و لفظ مهر یکی الان مسیت. آنچه بایدی. آنها بعضی از زرد زردی این <تصفيق> <تصفيق> لبنان به این چقدر نزدیک اوعملن این ها عین او در روزی ها و مسیح های اونجا گرفتن برم جلو خب این, این توی نقشه اینجا میشه. من که بینید خب بریم جلوته؟ علت کار بانمکی میگه فکر کن سبزش زیتونی بوده که مال منطقه مدیترانه بوده این قهوه‌ایشو از سمت ایران گرفته که نخوده بعد زردش هم چی چی گرفته که این همون غذای حمص سوریه و یه غذای مثال میزنه بعد اینجا حرف قشنگی میزنه میگه اون چیزایی که اضافه شده بهش اونها دیگه است اون اصلا اثری مثلا توی اندازه و حجم غذا نداره من میرم جلوتر این یه مقدار سیر اضافه شده این هم ملتم میخندن خب ببین این شام قدیمه اون ستا رنگی دارید میبینید الان شام امروز فلسطینی امروز میارن میذارید کنارش ببینید ببین سه هزار و هفتسد خب این ستا شاخص های خو حالا به این جلوتر این الانش یه خورده این قهوه ای بیشتر شده دو سه تا رنگ کوچیکم اضافه شده این فلسطینی‌های الان با ۳ ۷ سال پیش هیچ برقیند ساکنان اصل اونجا همینه یعنی به این تو مسلمون ها چهیه هم می؟ من العملیفت میگیرید برای که روز مناطق زمنستانون رو بگیره بریم یا آقا بیاد یونسکو بیاد اینجا نگاه اینجا مسجد داریم نشون مال ما بوده پس ما مسلمون ها خ خب کسی می توی مسلمان یک کاری ران کنه بابا یک 8 میلیارد مسلمان یک کمپین جهانی درسته بیا نگا یونسو ببلن شو تو بیا از ما ژنتیکی کن بالاخره معلوم بشه که واقعا اهل اینجا اینا اگه ادعا ندارن که ما اینجا بودیم بیاین از شناسیا رو ازشون چیز بگیریم هر کی خورد اینجا بمونه مخلصم باشه باشه بره نمیتونن جهانی همه دشمنانا چیز بکنن خب باید یه کار کرد بله بی خبر باشه ما کار مگه مخطوطات بهرونیه تو قایم نکردن کلی تورات و انجیل تو, تو بهرونیه پیدا شد که نشون میداد کلی تورات الان تحریف شده آبروی برشو نمون گفتن اینا در دسترس بشر اگه بشه آسیب میبینه بعد چیکارش می‌کنیم بعد ببرینتونم دمای اینا هم چند کلوین باید نگهشون داریم کلاً الان بردنشون تو سفره قایم کردن هیچ کسی خبر ندشته میگم میراث بشریه بمیره میگه خب چی میگه من ازش اسکن گرفتم پدر سوختن؟ این تردیدی شما نکن اینا رو از کجا آوردن مقط تا بهنامه تو وسط جنگ اسرائیل با عرب حمله کرد از موزه اردن ددیدن بودن برنامه داشتن وسط جنگ موزه و خالی کنه دستگیز دست بعد اینجا نسخ های خطیم ما دست این قاچاق اون قااق جتیکن و در از ژنا فلسطینی های امروزی شبیه به ژنا مردم باستانی شام در ۳ سال پیش است. حالا این سه تا رنگ رو دیده دیگه قهوهی سبز اون پایینه نگم چیز سفید بگیم زرد کمرنگه خب این, این سو ذهنتون بمونه ببین بریم جلو. آه. اینجا به همون توییت نتانیاهو میگه این چرت که پرت میگه خب خب واقعا من اذیت میکنم به دیگران آسیب میرسونه الان بختیش که حقیقت رو به طور ژنتیکی روشن کنیم و آن رو منتشر کنیم. چه موضوع به طور حیاتی مهمه. یکی از جنبه‌های جالب علمی که ممکن چیز غیر پیش شده پیش بیاد. مثلا یه توییت از بنیامین نیوتن داریم که به نظر این روزها وقت آزاد زیادی داره. شروع برد اون توییت کرد که مطالعه جدید از دی ان ای به دست اومده. یک سایت باستانی فلسطین نزدیک اشکلان در اسرائیل چیزی رو تایید میکنه که از کتاب مقدس میدونیم این که منشب فلسطینی از جنوب است. اما این حرف بار معنایی زیادی داره اون سیاسی داری یه پاشید برید اینجا بیرون چون مردم میدونن که کلمه فلسطین در عربی از یک کلمه رومی گرفته شده این منطقه روم شرقی بوده منطقه بسیار ممیدیترانه بسیار جای خوش آب و اوا کشاورزی همه چیش درجه که میگه نه تانایی جوری بانه بودن نگاه مطالعه ثابت کرد که مردم فلسطین امروز از اروپایی ها من گرفتن که خب این حرف میتونه پنیمده سی, سی زیادی مقصد تو وضعه مالکیت زمین داشتهاش بیاد یه مطالعه, این مطالعه نگاه کنی بیاریم واقعا چی بوده اصلش رو آورد بند خوبا دوره آغازین اصل رو آهن بررسی کرده <تصفح> 3300 و 3700 سال پیش توی این مطالعه محققان دی رو بررسی کرده و متن دقیق مقاله اینو میگه ما دریافتیم که هر سه جامعه تشکلون بیشتر منشأ جنتیکی خودشون از منابع محلی شامی دارن. دقیقا نکسی که اون مظخرفی کن توئیت کرد. نمیدونم نتونین جمله رو ندیده یا ازش رد شده. با این حال این همون حقیقتی که ما گفتیم. 3300 سال پیش هم همینه، 3700 سال پیش هم همین بوده. من میگم میزنم جلو نماز شد، تویت رو میاره، میگه خب اینم یه سایت اینم جالبی اینا مثلا انجامن یهودیان و هم بارده بحث شد گفته واژه واجه فلسطین به معنی مهاجم است یعنی بیرون اومدن اینجا <متحدث> یه هر موقع اینجوری اسم به نام بیگانو خارجی میذارن یعنی برنامه دارن نتانه همچنین دعا میکنه که فلسطینی ها از شبه جزیه عربستان به سرزم اسرائیلان خب لا مستد دفعه اگر گفت جنوب اروپا بعد این من میشه به عربستان اونم هزار سال بعد ولی ما الان دیدیم که این کاملا نادرست جنم جنفل... فلسیلانشون دیگه ریشه های جنتیان امیقا محلی و شامیست آقا اصلا مرسیحی هاشون شبیه مسلمان هاشون دیافه هاشون میاد چی لبنان سفر بکنید چهر... ما الان تو لبنان کلی مسیحی سید داریم اینا اجدادشون شیعه بوده شیعار که داشت عذیت کردن تقییه کردن دید تو موندن <تصفيق> خب بریم جلو خب آها این خیلی جاله یه هویی رنگ قرمز اینجا زیاد شد می‌بینید اینا کیه؟ استرالیا می خودش داره میگه یک باره اینا کجا اومدن اینا شامه نیستن بعدشو دیگه اینم ادامه نمیده که قشنگ بره تو اون رنگ اون ته اتوا بره اشک نازل باشه ها می‌بینی ببین چی میشه یه لحظه نشوند ببینید ببینید بغل قرمز خب خلاصه اینا انقدر رقیح نیستن یعنی مطالعه ژنتیک انجام شد و دقیقاً عکسش رو میگفته اومده همونو توید زده من چرا چون خیالش راحته نه کسی اکانتشو میبنده نه کسی تو اینوریا میره چک میکنه اخرشم یه جهود تو امریکا اومده بدبخ پیدا کرده فهمیدی این کشور یعنی چقدر یعنی باید؟ بس آقا اگر من صحبت امروز داریم شه با ساهین و سویر میشنگید هر کسی هر کاری داشتش برام خیلی کار داشتت من از یه پزشک و یه زبان شناس و یه دونم شاعر و فرنگ و باستان شناس بگید همه اینا میتونه گزارهایی باشه. یه یعنی من رفتم موزه داراباد اکسیژن می‌کنن جا کوچینو مارو خوش می‌کنه من رفتم داشتم که برمی‌گشتم می‌مدن بیرون مسئولش مارو دید اونجا این نون‌پری هم دستش شد خدا من سر صبح رفتم با هم دیگه کلکرار دادیم بالا با اون نگهبان اونجا بعد بابا کجا اینجا چیکار می‌کنی الان خوشحال شدن خوش بابا بیایید گفتم من سخنرانی دارم بعد برم. اصلاً یکی دلالی هم که رفتم اونجا اینکه تنظیم کردم که سخنرونم تو منطقه گفتم اونجا من دوستان برم ببینم آخه شما یه نکته خیلی مهمی شون گفت. مثلا ما یه سری گونه‌های جانوری داریم، خب، که مثلا فقط توی جزیره بوموسو هست. یه توم به بزرگه، توم من گفتم این اسمش مثلا فارسی نشه. میگفت اینا خ... اینا بعداً میتونه مبنای دعاوی حقوقی باشه. درست میگفت. ببین یه نفر کارش به مراد جانورشناس، چی اصلا نمی‌دونه اسم چیه. خب، اما یک جایی میتونه یک خدمتی به امنیت ملی بکنه. چیز جا تو توف ب از اون لحظه نتونن درست شد هر کسی هربی و دروغ می چطور جلب تاریخ میکنن چطور این لاله های واژگون ما که مال زاروز هست روی ظروفی پیدا شد در اسرائیل خب بعد اونا از اون میخواستن چی به بتراشن؟ بر خوشون هویت بتراشن دقیقا برکسون چرا چون یه شانس آوردیم این لاله ها فقط تو زادرست در میومد و گفتیم این دقیقا نشون می مال ما بوده اگها حرفی داری <تصفيق> خب ما اونجا بودیم درسته برای شمامون بلند شد تا اونجا رفته یه دست لیوان هم برد با خودش برده گرفتید <تصفيق> <تصفيق> بیا او میخواست از اون برای خودش هویت از همین جا پیدا شده ها متاسم توسط با ها من بر میدم اونجا علکی توی بازی از زیر زمین دوره می کشم میونداری قا می کشف کردیم به ما چه تمدادیم چیکار کردیملند هیچ چیزی حتی ای چیز عجیب شما، هنچین پادشایی از سلیمان و داود که گفته میشه یک پادشایی کاملا چی بوده؟ محلی کوچک بوده به خاطر همین شما تو نوشته های اخطر مثلا ما میتونیم پادشای رومون نگیم مغولار اسمشون رو به لخرها بردیم هنوی که از بحثایی که امروز جدی خود سهی نستای سکولار دارن میگن چرا از سلیمان و داود اسم نیجای دیگه این پادشاه و امپراتوریش اثرگذار باشه نمیرا فلان باشه مطلقاد دست اینا همیشه این سامیسم سا. مثل انگل به امپراتوریا چسبیدن اول به حخامنش چسبیدن بعدش چسبیدن به مسلمان‌ها بعدش چسبیدن به هلندیا دقیقاً هلندیا اون موقع کشور گشای دارن میکنن استعمار دست هلندیاس بعد میرن دست دست اسپانیایس میرن اسپانیا شجاع زیر ای بری میرن بعد میرن هلندیا بعد میرن انگلیس دقیقاً انگلیس الان آمریکا 1516 میرن جهود دارن تو دنیا هفت میلیونشون آمریکان، اولیشم ایشان فلسطینش اشغالن. باقی هم 20000 تا 50000 تا 7000 تا تا کشور دیگه. عددی نه، آمریکان و فردا چین بشه ببینین چیزی کوچکن برن اونجا، شروع می‌کنن قصه تراشیدن که یاد میشه ده سال پیش سخنرانی می‌کردن براتون گفتن. دا الان دارن میگن ما اون ده سپت گم شدم اونو پیدا. اینا این هر جا رو بخوام بگیرم میگن ما دوازده تا سپت بودیم، دو تامون یهودا و بنیامین می‌دونیم کجاست، اون ده تا دیگر هر جا رو میخوان بگیرن میگن پیدا کردیم رفیقا اونجان بعد جالبه همیشه هم این دو تا دنبال اون ده تا میگرن اون ده تا چرا دنبال این دو تا نمیگردن اونا چرا اونا بیشتر اونا و داد بزنن بزننکنن الان دارن میگن ما در زبان ژاپنی و ابری اشتراکات دیدیم اینا اومدن رفتن تو... کلیپ هاش هست اوقا ها رو یه جستجو بکنید مطالبه بکنی. کلی بعد مثلا چی میگه میگه اینا بهنا باکی ژاپنی بلد با هستن میگن میگه اتا یعنی مثلا تو بعد ما میگیم ما تو ابری مثلا انتا یعنی تو میگه خب چرا یهودی و عرب انتا خوب نیهانگو تو هبروایی گوم اوناجی ایمیتو کاتسون ای پای آو بکریستا اتا و نی مونگودو اناتا ペライゴの朝、それはあなたと10族。失わ 10族 ببینه چطور میاد ریشه میسازه برای خودش؟ چون نداره ما ریشه های خودمون و دست خودمون داریم مشه یه جایی برای که نمیفهم دشمن امروز بزن یک چمه هر چیزی که اوات تاریخی ملی مذهبی ما امروز بزنه بازی در زمین اسرائیل است تمام. حتی اگر درست باشه چ شد؟ حتی یه ح هم درست؟ مثلا فلان عادت بد مثلا ایرانیا داشتم ما میدونیم ا بفر بهفرض خب. الان گفتنش خطا جز راست نباید گفت هر راست نشده ما اینو نخواستیم. جون مادر تو اگه چیز بدم به فقط راستشو می‌گفتیم. ما بعد اینجا قرآن تعریف بکنه از کوروش. چون ما اینجا بدو باید باید باید مثلا نه آقا مثلا کافر نبوده. ده. قرآن هم این کارو کرد دیگه. انقدر علیه علیه کوروش اینا چه برای سر سلیمان آوردن؟ بل... سر پیغمبر خودشون بلای آوردن که قرآن داره میگه و ما کافر سلیمان. قسلیما کافر نبوده. خیلی بده ببین چی پخش شده بوده که و اما ها که هم جلسه بعدی مینه من یعجوج معجوج چیزه گفتم تو حالا میریم تو بحث علوم غریبه که اینها روش دست گذاشتن و این شیاطینی که به کار میگرن چیه و اون 72 جن سلیمان چیه و اون جلسه بعد بر... تحجیل فراز و امزان زمان موسیقی